بسم الله الرحمن الرحیم سلسله شیعه هجاب ملاحظات و الزامات حکمرانی و ارائه حجت الاسلام محمد مهدی منش و دبیری حجت الاسلام دکتر حسن شفیعی سشنبه شنبه دوم اسفند ماه 1401 اللهمحمد الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثب فصلي ربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق <تصفيق> الله العليم العظيم والله ما خیلی متشکرم اجزت میفرمایید از اینکه فقط رسم جلسه رو پیشگاییدون ادب نمیدونم شما رو فخر نمیکنه اعوذ بالله من نفس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام مجدد دارم خدمت استاد عزیزمون و بزرگواران حاضر و عزیزانی که طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنم دقیمت استاد عزیز آهی منش هستیم با سلسله نشست های ملاحظات مقبوله هجاب و انشاءالله که جلسه مفیدی باشه و ما بتونیم از ویانت استاد استفاده کنیم. از باب مقدمه چند دقیقه رو تصیح می کنم و انشالله بیشتر از نکات استاد استفاده کنیم. از نظر برخی فرهنگ پژوهان و تمدن پژوهان، فارغ از اینکه هجاب در یک ساعت فردی، می شود مورد بررسی قرار بدیم ساحت های اجتماعی اون چه بسا پر از ساعت فردی اون در دنیای جدید بشه مورد بحث قرار داد تمدن اسلامی بعد از انقلاب اسلامی که خون تازه‌ای در رکاش جاری شد به مقوله محنویت پرداختر بیانات حضرت آقا هست که می که انقلاب اسلامی یک رونسانس محنویت بود تمام تلاش انقلاب اسلامی گسترش محنویت در جامعه خودش و در ادامه امت اسلامی و بعد جهان می شود که حالا بر اساس ترتیب پنجگانه تحقق انقلاب اسلامی نظام اسلامی دولت اسلامی جامعه اسلامی و تمدن اسلامی رو بتونیم رو تفسیر کنیم این تمدن در مقابل تمدنی کاملا مادی و ضد معنوی شکل میگیره تنازاعات تمدنی اینجا شکل میگیره خصوصا در مظاهرش ما از همین رو میبینیم که قبل از آنی که انقلاب اسلامی شکل بگیرد به مبارزه با مظاهر معنوی میپردازه در جامعه خودش بعد از انقلاب اسلامی خاطر گرایش به معنویت این نزاع رنگ و بوی جدیدی میگیره و تعبیر یک فرموده حضرت آقا وارد یک پیچ جدید تاریخی میشه این نزاع تمدنی آغاز میشه تمدن نزاع تمدنی, تمدنی جنگی سخت ما جنگ 8 ساله رو داریم بعد وارد نزاعی میشه سخت میشیم که مقوله جنگ اقتصادی هست که کم با کان باش دس و کان و 1.5 نند میکنیم و بعد جنگ فرهنگی و نزاع فرهنگی در این نزاع فرهنگی شاید اولین خط و جدیترین جبهه و خاکریز شاید به شود گفتش که مقبوله هجاب باشه مقبوله هجاب یا به تعبیر دقیق تر زن باشه در خود بحث مقوله زن اولین مقبوله شاید مقبوله پوشش باشه توی این نزا ما الان خصوصا بعد از این اختشاشات نیاز بیشتری رو احساس میکنیم نیازی که باید سالیان پیش بهش پرداخته شد، بهش پاسخ داده میشود در جامعه می میشود در حوزه های مختلف می شد، اما پرداخته نشده و الان با یک چالش جدی رو به شاید از همین رو هم هست که دشمن متوجه این شده و بیشترین حجم خودشون رو, رو این مسئله آورده اما امید داریم که همانطور که نظام اسلامی یک نظام پویاست در موضوعات مختلف تونسته از تهدیدها یک فرصت ایجاد کنه کمانی که در حوزه نظامی یا فرهنگی ما شاهدش هستیم امید داریم که در حوزه فرهنگ خصوصا در موضوع زنان و هجام هم ما به این مهم دست پیدا کنه و از این تهدید و چالش به یک ضربه، یک ظرفیت، اصرار خوب و یک فرصت بدی دست پیدا کنیم در مقوله‌ای که ما در خدمت شما هستیم، بیشتر مایل هستیم که از فرایند صحبت‌های شما و سایر نخبگان و اساتید به راهکارها دست پیدا کنیم. رون هم راهکارهای اینی گام به گام تبیین شده، هم گام هایی که ما بیشتر درمان ها و توصیه ها چه و و های بلند مدت باشه. کمتر به مغوله راهکارهایی هایی که الان فلال بتونه کمک حال ما باشه میپردازیم. این هم یکی از نکاتی است که چون شاید اساسا پرداختن به نکات موقتی راهکارهای سریع یه مقدار سخت باشه و ما کمتر به این موضوع میپردازیم بیشتر میریم سمت راهکارهای بلند مدت درمانهای بلند مدت این مسئله شد که ما بیایم سراغ نخبگان و اساتید همانند شما و با گفتگو بتونیم که به راهکارها دست پیدا کنیم جلسه ما هم غالبا سعی بر بود که یک جلسه نخبگانی باشه تا اساتید مدعو بتونن راحت تر به تبیین نظراتشون بدون ملاحظات و محافظ کاری که اختیزای جلسات عمومیست به پردازند رو و از مدیانات شما استفاده کنیم. خیلی اطالعی کلام کردم فقط از باب رسمیت بود و این همینم اصراف در وقت شما و از زمود دست خواهی میکنیم. مدخمت شما هستیم استفاده میکنیم محصد شما. اولو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و والسلام علی سیدنا و نبینا محمدالغالف طیعیدین و طاهرین اللہ صلی اللہ حتم بلن دایم. دایم اجمعین خب عرض سلام و عدب مخصطه نباشید هم خدمت عزیزانی که همراه ما هستند در فضای مجازی و هم شما اساتید بزرگوارانی که محبت کردید نمیدونم از چه بابی بنده حقی به حساب اومدم و اینجا هستم اینجا جایی کسانیه که واقعا اصطلاح اندیشمن نخبه چون میدونم استاد اینها شایستشون باشه من یه اطلاعات و تجربه محدودی دارم امیدوارم که وقتتون تلف نشه اینها رو خیلی جرید در خدمتتون در اختیارتون قرار میدم بحث رو زیاد اینشالله طول نمی. خب ما تابستان امسال وقتی این ماجرای اتفاقاتی که همه ازش خبر داریم پیش اومد خیلی دغدغه پیدا کردیم توی موضوع حجاب یه کار جدی انجام بدیم از سالهای قبل هم به اقتضای کاری که داشتیم با والدین مربیان والدین افراد فرهنگی انجام می دادیم توی حوزه تربیت یکی از سوالات پر تکرار و جدی والدین و فعالان بحث حجاب یعنی شما هر جایی حرف از تربیت دینی میزنی دو تا سوال خیلی پررنگه یک برای نماز بچه‌هامون چیکار کنیم دو برای حجاب بچه‌هامون چیکار کنیم یا نگران اینن که بچه هاشون بعدن حجاب بذارن کنار یا همین الان بچه‌هاشون حجاب رو دارن کم کم توش سست میشن و میذارن کنار میگن چه کنیم لذا به بهانه اتفاقات اخیر دیدیم مسئله مهمیه و روش تمرکز گرفتیم تقریبا هم مجموعه کتاب ها و اندیشه که بود و سعی کردیم خیلی با سرعت مطالعه کنیم هم افرادی که مشاور بودند تجربه کار با نوجوان دختر تو سلین مختلف داشتن رو دیدیم مبانی اصلی که توی حوزه تربیت دینی تشکر مبانی اصلی که توی حوزه تربیت دینی خودم بهش رسیده بودیم توی این سال‌ها رو آوردیم و سر یعنی میخوام بگم من اون چیزی که الان خدمتتون تقدیم میکنم هم حاصل این تجربه ها و مطالعات اندک و محدودشون 16 در ساله خودمه هم حاصل گفتگوهایی که با اساتید مختلفی توی حوزه های مشاوره و روانشناسی داشتیم هم با اونهایی که خودشون تو صف و مدارس با دخترها نوجوان ها مرتبط بودن، چالش ها و مسائل رو می دیدن، شد با والدینی که خودشون دختر داشتن، من یک جلسه گرفتم شاید خوده 50 60 تا از مادرهایی که دختر دارن و مسئله حجاب رو حل کردن برای دخترشون با اونا صحبت کردیم که آقا شما چه جوری پیش رفتی؟ چه کردی؟ شما که الان دخترتون محجبه چه کردید که محجبه شده تجربه اونا رو جمع کردیم بعضی از دوستانی که فعال بودن تو فضای مجازی تو این موضوع از مخاطبینشون نظر گرفته بودن چند تا مثلا پست تو این زمینه کار کرده بودن و یه آمار خوبی از فضای عمومی گرفته بودن مثلا مخاطبه بالای هفته تا اون رو هم به کار اضافه کردیم و جمع کردیم سعی کردم من یک نظم انسجام و ترتیب این ایجاد بکنم که بشه گام به گام به والدین توصیه کرد که از اینجا شروع میکنید قدم به قدم به اینجا میرسید من توی گفتگوی خودم تلاشم بر اینه که امده حرفهایی که میزنم ناظر به فضای تربیت باشه دو ناظر به مخاطب والدین و مربیان باشه از لابلای حرف ها تکالیف و وظایف دولتی و حکومتی هم به دست میاد ولی فعلا بنام برای نیستش که بگم آقا حکومت بعد چه کنه یا چه اشتباهاتی کرده خب تو قدم اول ریشه ها رو من بیان میکنم که حدودا اون چیزی که به ذهن من میرسه با همین دانش محدود من چهار ریشه اصلی داره ماجرایی یسوس شدن در هجاب و بعد میرسم به وظایفی که حالا والد مربی هر کسی که میخواد تو زمینه هجاب فعال باشه بر عهده داره وظایف رو هم تو دو بخش تقدیم میکنم بخش اول وظایفی که از همون خرد سالی یا حتی میشه گفت سالهای اول بعد از تولد والدین میتونن شروع بکنن و انجامش بدن و یک سری وظایف ناظر به آستانه بلوغه یعنی وقتی که بچه دیگه به یک پختگی دارن کم کم میرسن وارد نوجوونی دارن میشن یه بحثی هم در پایان اگه وقت اجازه بده خواهم داشت در شیوه برخورد با افرادی که حالا به هر دلیلی از هجاب ضربه خوردن، متنفرن، شل هجابن، اناد دارن چه کنیم با این؟ خلاصه بحث من اینه چارچوبه است. خب تو گام اول علت ها اگه بخوایم بحث بکنیم به نظر چهار علت اصلی داره بحث کمرنگ شدن هجاب توی دختران و زنان جامعه ما اولینش که برای همه روشن واضحه اینه که هجابی بخشی از دینه علت اصلی اینه که جامعه توی دین سست شده وقتی به تو دین سست میشه به تبعش تو مسائل مختلف دینی هم سست میشه فقط تو حجاب نیست تو نماز هم هست تو نماز نیست تو مراعات مسائل حلال و حرام شرعی دیگه هم هست تو ارتباط با جنس مخالف هم هست توی خمس و زکاتش هم هست تو نون حلال خوردن هم هست تو خیلی از مسائل مختلف متاسفانه بعضی از افراد جامعه سست شده دینداری توی جامعه سست داره میشه متاسفانه چرا دین داری داره توی جامعه سست میشه موضوع اصلی بحث من نیست ولی یه تعداد دلیل داره به ذهن من میرسه اولینش و اصلی ترینش که مرحوم استاد صفای رحمت الله علیه هم تو بیاناتشون تندیشتشون خیلی روی این تکیه دارن اینه که دین پاسخ به یک نیازه پاسخ به یک خلعه پاسخ به یک ضرورت حس شده است اون جایی که اون ضرورته، اون نیازه، اون خلاه حس نشده دین تمایلی در افراد برای اینکه بپذیرنش نیست و اگر ما بخوایم بهشون تزریق بکنیم یه باریه که دنبال اینه که یه جوری بذارنش زمین حالا امروز نتونست بذار زمین فردا فردا نتونست بذار زمین یه جایی دیگه بلاخره این آریتیه، مال خودش نیست در کنار این اضافه کنید به این که پس علت اول سوز شدن دین جانعی افتادن ضرورتشه و غرق شدن مردم تو زندگی دنیاییه. دو فاصله گرفتن روحانیت از مردمه. ما تو مسئله هجاب بلاخره بعد انگشت اصلی اتحام رو سمت خودمون برگردونیم. چقدر ما با مردم داریم زندگی میکنیم؟ ما آشرت داریم؟ چقدر لابلای مردم هستیم؟ شما مدارس همین قوم رو یه دور بزنید ببینید به ازای هر هزار دانش آموز چند طلبه باسوادی که بلد کار با نوجوان بکنه وجود داره به لطفه خدا بعضی از طرها را افتاده بعضی از طلبه ها رو میفرستن توی مدارس و با یه ای هم دارن این کار انجام میدن. بدون پختگی و آمادگی چون من بعضا رفتم توی جمع بعضی از این دوستان طلبه دورای آموزشی که بوده خب واقعاً خیلی از دوستانی که دارن با دغدغه میرن تو این مسیر آموزش لازم نیدن سفت کیلومترن میرن امیدواریم که کار خرابته از این چیزی که هست نشه ولی واقعیت ماجرا اینه که خوب نیستن مردم بین مر... طلبها بین مردم طلبها تو قم متجمعن اونایشن هم که تو قم من تو شهرک مهدی و توی پردیسان هزاره هاشون هم جدا کردن این کجا اون های قدیمی که بین مردم زندگی میکردن تو کوچه‌ها بودن من یه شهری اطراف کرمانشاه رفتم پار یه برنامه ای داشتم می که اینجا مثلا بالای 90 درصد خانوم ها هجاب دارن اصلا به شدت مذهبی اون شهر خود مردم خود فعالان فرهنگیش می گفتن علت هستی اینه که دوسته تا عالم اسماشون هم اینجا اومدن بین مردم موندن با اینکه ما یه شهر کوچیکی هستیم تعداد جمعیتمون زیاد نیست مثلا چند تا آیت الله داریم اینجا حالا به رحمت خدا رفتن ولی حضور اینها در بین مردم به صورت ناخودآگاه سطح دیناری ارتباط داد علت سوم مشکلات کشور که به پای روحانیت داره گذاشته میشه توضیح واضحه علت چهارم برخورد های غلط دینداران به بهانهای مختلف گاهی به بهانه امر به معروف و نهی ازمون کرد گاهی به معنای تب... به بهانه تولی و تبری گاهی اصلا به خاطر تربیت اخلاقی نشدن درست بعضی از ما دیندارها یعنی ظاهره متدینی دارم ولی واقعا نه اخلاقم نه رفتارم نه همسایه داریم نه برخوردم هیچ کدومش حس خوب نمیده به آدمها نتیجهش داره به پای دین گذاشته میشه چهارم پنجم هجوم سنگین دشمن توی فضای فرهنگیه که توی این چند ماه اخیر دیگه این خیلی مشهود بود یعنی من خودم توی یکی از هنرستان ها رفتم دو جمعه دخترها دیدم پر ذهنشون از شبهات و سوالاتی که معلوم این سوال و شبهه با فکر بهش نرسیده معلوم از جای دریافت شده حجم خوراکی که دارن دریافت میکنن تو فضای مجازی از اون طرف واقعا قابل مقایسه نیست با این کاری که ما این طرف داریم انجام بدیم این حجوم رو بگذاری در کنار اینکه خب حالا بچه های ما آمادگی مواجه استقامت دفاع کردن در مقابل حجوم رو هم ندارن طبیعتش اینه که از دین فاصله میگیره و آخرین علت جدا شدن از دین ضعف شخصیت و اثرپذیری از فضای قالبه که باز مرحوم استاد صفایی رو این خیلی تکیه دارن توی اندیشه تربیتی خودشون میگن توی دوره قبل از بلوغ اون کار اصلی که بعد والدین اتفاق بعد رقم بزنن و اتفاق بیفته اینه که رو شخصیت بچه ها کار بکنن بچه ها یاد بگیرن مستقل بودن رو تابع نبودن رو همراه جریان قالب جامعه راه نیفتادن بچه ما اینو یاد نگرفتن به خاطر این خب فضای مدرسه، دوستان، مجازی، معلمین فضای پر از آسیبه و فضای پر از مظاهر عدم دینه به دلایل مختلف و به روش های مختلف می با دینداری و هجاب بچه ها خب بچه یاد نگرفتن این خلاف جهت حرکت کردن و وامیدن، هم رنگ میشن، هم راه میشن این دلیل اول بود که گفتم فاصله گرفتن از دین باعث شده مظاهر دین که یکیش حجابه میشه دوم این دلیل اینه که این دلایلی که دارم میگم به این معنا نیستش که با هم ارتباط ندارن و میشه با یه تحلیل همه این رو به هم وصل کرد. به هم ارتباط دارن. ولی حالا میشه در بود. واقعیت ماجرا اینه که خب حجاب سخته. باز اینم خیلی دلیل داره که حجاب سخته. شما هم من بهتر میدونید. از مطلقایی که طرف میخوره تا توهینایی که بهش میشه تا نگاه غلطی که بهش داره تا اون طرف میگه نمیدونم برام خواستگار راحت پیش نمیاد و مسائل مختلف با حجاب بودن دردسر داره راحت نیست حتی به لحاظ مادی هم نگاه بکنی هزینه یه چادری که طرف بخواد بخره سرش میگه یه چادر خوب مثلا 70000 تومان گرماشو رو حساب کن تا به سونش رو حساب بکن دست و پارگیر بودنش رو حساب بکن نگاه های سنگین رو حساب بکن توی فضای تفریحی میخوایی بری همه بهت یه جور خاصی نگاه میکنن این واقعا هر کسی حاضر نیست این سختی رو بپذیره اونم تو جمع خانوم ها که خب میل به دیده شدن دارن یعنی بیهجابی درسته که هجاب مطابق حیاس و در خانوم ها هست. Really... بله ولی از اون طرف نداشتن هجابم مطابقه با یک غریزه است این که ها بالاخره توشون تمایل بدیده شدن خیلی زیاده و تعارف نداریم اگه طرف یه خورده اهل شل هجابی و رسیدگی به سر و صورت خودش باشه بیشتر مورد توجه اقبال قراره کم ندیدیم دخترهایی که علت اصلی این شل هجابیشون اینه که میخوان به چشم آقایون بیان به چشم پسرها بیان این دلیل دهنکجی به نظام لجبازی با والدین با مذهبی ها این دلیل سوم در کدوم آدم ها بروز پیدا میکنه اون آدم هایی که یه زخم میخوردن، خوردن یه آسیبی دیدن این آدم درد داره یه آخوندی حالش رو گرفته یه مامان چادری تحقیرش کرده، بهش زور گفته یه معلم قرآنی یه جایی زده برجک که این آورده پایین یه جایی بیوفایی دیده بالاخره زخم خورده و الان داره لجبازی بازی می میکنه، الان داره دهنکجی می کنه الان داره مخالفتش رو اینجوری نشون می دهن دهنکجی به نظام که میگم گاهی کجیه به خاطر مشکلات اقتصادی یا طرف رفته وام بگیره. بهش ندادم. من با آقایی صحبت میکردم. میگفت من نماز جمعه میرفتم. نمیدونم راپیمایی میرفتم. فلان میکردم. بیسار میکردم. مقلد فلان مرجع بودم. الان هیچ کدون با قبول ندارم. خلاصه حرفش چی بود؟ من آقا توی نمیدونم فلان کارخونه کار میکردم. ما رو بازنشست کردن. با حقوق مثلا اینقدر. در صورتی که مثلا علل قاعده باید حقوق بازنشستگی ما ور اساس فلان نرخ مواسعه میشد، شد اینقدر بالاتر حق ما رو خوردن. کلا نسبت به نظام و انقلاب همه زاویه پیدا کرد. اینم یک دلیله و دلیل آخر احساس حقارت، احساس بی بودن که واز میگم به دلایل های قبلی بی ربط نیست به اون میل به دیده شدن بی ربط نیست واقعیت ماجرا اینه که من به اندازه همین تجربه محدودی که دارم و دون جوان ها دارم صحبت میکنم شما شاید حس کرده باشید خصوصا تو دخترها یک احساس بی ارزشی هقارت شدیدن لمس میشه آدمهایی که احساس میکنن خیلی کم بود دارن کافیه یه ایراد قیافش بگیری یه ایرا در تیب پش بگیری سه شب خوابش نمیبره بره شما میدونید یکی از بیماری های رایج تو دنیا در دختران نوجوان سوه حازمه است علتش چیه؟ نه نمیخوره که هیکرش به هم نریزه انقدر نمیخوره که کارش به بیمارستان میکشه هر روز سانت میزنه اندازه میگیره جلوی مثلا آینه که چقدر مثلا چاق شده چاق نشده خب از کجا این میاد یعنی آدمی که همه چیز رو به ظاهر و اندام خودش داره میبینه یه ذره دماغش خنداست یه ذره اینجاش جوش زد یه ذره اونجاش خال من دیگه مدرسه نمیرم مثلا من روم نمیشه با این قیافه برم تو مدرسه بابا مگه چی شده اینجا جوش زد جوش زد اوج احساس حقارت و احساس بیارزش بودن و همه چیز رو خلاصه دیدن در ظاهر دخترای ما رو انداخته به یک رقابت سنگین توی اصلاح ظاهر خوشتیب شدن قیافه گرفتن این حجم عملهای جراحی زیبایی اینا یه بخش زیادی شیشش به این برنه خب سر در نیارم چه کنیم دو تا نکته ابتدایی میگم و بعد وارد راهکار ها میشم. نکته اول اینه که بیایم اول نگاهمون رو به جایگاه هجاب اصلاح کنیم. ما که دقنقه هجاب داریم و میخوایم روی هجاب کار فرهنگی بکنیم برای خودمون این حل شده باشه که آقا هجاب تمام دین نیست. بعد هجاب لزوما بی دین و کافر نیست. تو بیانات آقا ماذا و رحبری هم مکرر این اومده. هجاب یکی از احکام دینه احکام هم جایگاهش تو نظام اندیشهی ما بعد از اعتقادات و نظام ارزشیه. حالا این درسته که بگیم دشمن فعلا دست گذاشته رو این سنگر به قول شما سنگر اولیه که میخواد بکوبه بیاد جلو ممکنه سنگرهای بعدی رو فتح کنه و شاید ما باید اینجا خیلی استقامت بکنیم هجاب بهان است یه سیزای دیگه نشان است اینها پذیرفته شده است ولی حداقل تو ذهن خودمون این حل شده باشه که آقا هجاب همه ماجرا ماجرانیست یعنی بعضی از مادرها بعضی از والده بعضی از آقایون طلاب سلام الله، یه جوری برخورد میکنن با فرزندشون با متربیشون با دختری که هجابش شله چنگا این دیگه کلا از دست رفته است از دین خارجه نه آقا سب کن این یکی از احکام شرعی رو رعایت نمیکنه صد تا از اون احکام شرعی و منم رعایت نمیکنم حواسمون نیست چرتکه نمیندازه و الا اگه بخوایم بیندازیم بندازیم چورت که ببینیم من در چند تا حکم شرعی زیر پا میذارم چند جا تحقیر می میکنم چند جا حرمت یک مؤمنو حبس نمیکنم چند جا فلان کم نیست از هم قشرا هم لباسهای منم سیاد سادر می خدا حفظمون بکنه این که ما وقتی طرف یکی از احکام رو رایت نمی اینو مساوی می دونیم با خروج از دین تو نوع برخورده شما می بینید دیگه طرف مثلا یه شل هجاب یه بعده هجاب رو می بینید. اونقدر اخ میکنه کنه رو ترش میکنه، برخوردی می که اینکار مثلا با یه کافر حربی که در مقابل انقلاب اسلامی مثلا قد علم کرده با سلاح اومده چنین حسی داریم خب اینجوری نمیشه آدم رو جذب کرده اصلا واقعا تو برخورد بزرگان آدم اینو نمی اینو نمیبینه خاطرات حاجقاسم سلیمانی رو میخوندن خیلی جالب بود میگفت یه وقتی توی فرودگاه اگه اشتباه نکنم چند تا بعد بدهجه آمدن بهشون گفتم مو با شما عکس بگیریم اطراویون واسو حسین گفتم با این عکس نندازید براتون شر میشه. آجا حسین گفت نه من باشون عکس می‌ندازم. فقط به شوخی و خنده بهشون گفته بود که مرگه مثلا با این تیپ شما باهاتون عکس برای من بعدم خیلی حرف در میارن. اینا خودشون درست کرده بودن تیپ و قیافه شون که آجا حسین. اینکه بپذیری طرفو حاضر باشی باهاش عکس بندازی، ارتباط داشته باشی، در خونه باز باشه سفرت رو جدا نکنی. اینا خیلی تاثیر داره. خب. بریم سراغ وظایف یا راهکارها. مقدمه اول دو تا مقدمه دو تا مقدمه رو گفتم دیگه. آه دومیش دو بله بله, بله ببخشید. دومیش دو نگاه ریشه‌ای و بلند مدت داشتن به تربیته. اه... یه جمله رو من میگم بنظرم جا داره بهش به صورت جدی توجه بکنیم اونم اینه که حجاب از حجاب شروع نمیشه حجاب از حجاب شروع نمیشه یعنی اگه کسی بخواد حجاب رو اصلاح کنه شروعش از حجاب نیست کلی مقدمات داره حجاب محصول یک جهان بینی و نظام ارزشیه یه دستگاه مختصادی تو ذهن این آدم شکل گرفته که بروندادش این شکل از تیپ و ظاهره اون دستگاه مختصاد و نظام عرضشیه تا تغییر نکنه این بروندادش تغییر نمیکنه. کنه معمولا به والده میگم دنبال راهکارهای سریع نتیجه گرفتنهای ای نباشید نگاه بلند مدت داشته باشید زیر ساختها رو فراهم کنید تا رویشها به مرور اتفاق بیفته اینکه الان توی این شرایط جامعه یه کسی میاد که حجاب جواب کنه تو خیابون و بچه برخوردی باش بکنه همین تصمیم بگیریم این حرف جدا سو باشه در مورد این بشینیم صحبت بکنیم یا یه تصمیم بگیریم ولی الان یه مامانه توی خونه یه دختری داره که خیلی حجابش صفر نیست این چی کار بکنه این بعد نگاه بلند مدت داشته باشه این بعد یک سال دو سال حوصله داشته باشه تحمل بکنه تا این دختر یه وقتایی بعد حجابی بکنه تا بتونه اون درون رو تغییر بده و برون رو خود این آدم به دست خودش عوض بکنه اونجایی که ظاهر افراد به دست خودشون تغییر نمیکنه ماندگار نیست. اونجایی که ظاهر افراد با دست خودشون تغییر میکنه بهخاطر اینکه درونشون عوض شده ماندگاره ماندگاره من خیلی برخورد کردم به اقضی همین مشخل ای که دارم توی فضای تربیت بادم هایی که تحشون تحول, تحول و تجربه کردم و چقدر سفتن؟ همین؟ سفر اخیری که رفته بودم مشهد با یک کسی گفتگو میکردم خانوم میگفت من میخواستم با شوارم برم خارج از کشور. بسته بودیم که اصلا برای زندگی بریم اونجا هجابم خیلی سست مادرم با هجاب نبود هم بیرون بود این آدم الان رسیده به مرحله ای که همون خونه ای که برایش نمیدونم به عرص است و چیر است و بفروشه باشه بره خواهد از کشور وقف کرده در اختیار یک مجموعه گذاشته که دارن کار تربیتی میکنن برای اینکه زمین ساز بشه جوانها و نوجوانهای ای بیان اینجا بفهمن راه درست چی به خاطر اینکه کسی عجله نکرده میگفت یک بار هم پدر و مادر من نه به ما نماز تذکر دادن نه به ما هجاب تذکر دادن حالا مادرش میگفت خیلی محجبه نیست ولی پدرم اهل نمازه و اهل مراهات های دینی هستن ولی هیچ بار به سراغ وظایف که بریم تو بخش وظایف که میگم از خورد سالی بعد بهش توجه بشه من به ذهنم میدهده دوازده وظیفه اصلی دارن والدین این مربی ها خیلی سری میگم بخوام روشون وایستیم توضیح بدیم زمان میبره ولی فهرستشو میگم بعدن اگر فرمودید هر خودمشو لازمه بیشتر توضیح بدن وایمیستم بیشتر توضیح بدم یک تأمین نیازهای اساسی کودک مادری که دقدقه هجاب بچهشو داره پدری که دقدقه هجاب بچهشو داره نیازهاشو باید بشناسه و تأمین کنه نیازهاشو تأمین نکنه اتفاق نمیفته معروفه دیگه میگن آقا شکمی که گرست نست شد توقع مثلا دینداری ازش نداشته باش حالا بله یه آدم خیلی آدمهای مستحکمی هن با اینکه شکمشون هم گرست تو دینداریشون مستحکمه. ولی واقعیت ماجرا اینه که قالب موارد اگر طرف نیازش تمنی نشده باشه کمبود داشته باشه اون انرژی لازم برای اینکه پای دین به ایسته خلاف جریان قالب حرکت بکنه نداره نیاز های یه چیه؟ نیاز به محبت. کمبود محبت وقتی داشته شده با این نمیسته نیاز به تفریح بازی. یه خونه فکستن یه فکستنی متری که بچه ها یه تک بچه اینور میپره لنگش گیر میکنه به دیوار اونور میپره سرش گیر میکنه به مبل بچه ها توش نمیتونن واقعا جنب و جوش داشته باشن. نیاز تامین نمیشه. این بچه‌ای که نیازاش تامین نمیشه، ارزش توش نداشته باشید. پای مسائل دینی وایسه. این بچه از درون پر از تنشه. حالش خوب نیست. آدمی که حالش خوب نیست، حوصله نداره کتاب بخونه. آدمی که حالش خوب نیست، حوصله نداره فکر کنه. آدمی که حالش خوب نیست، حوصله نداره کار بکنه. بچه‌ای که حالش خوب نیست، حوصله نداره پای عرضش های دینی وایسته. دنبال اینه که راحت تر باشه. نیاز سوم، نیاز به آزادیه. پدر مادرهایی که با و نحیه های زیاد چارچوب های زیاد خط قرمز های زیاد بعد چارو به شدت محدود کن به این دست نزدن سر یخشانه رو بلدم خوارتو ول کن گیر زیاد میدن حالا چه تو مسائل زندگی معمولیشون مثل همین چیزایی که مثال زدم یا تو مسائل مذهبی نمازه تو خوندی این لباس با این رخت و لباس باشه مسائلاتو نمیان بیرون پشتو برو یه شیم مثلا ی اینقدر امن و نهی چارچوب داشتن احساس آزادی نکنه طرف تأمین نمیشه وقتی تأمین نشد هم اختلال براش به وجود میاد همین که بار دینداری و نمتود رو دوشه طرف بگیزارید دینداری بار سنگینه آدم قدرتمند میخواد آدمی که نیازاش تأمین نشد و قدرتمند نیست حرف خلاصه حرف منیه دو ایجاد رابطه خوب و دوستانه میخواد بدون رابطه خوب و دوستانه بین والد و فرزند بین معلم و شاگرد بین مربی و متربی بین آخوند و امت تغییر حاصل نمیشه اصلا بچه ها حرفای ما رو نمیشنم اصلا بچه ها ما رو نمیشنم من دارم اینجا میتونم خاطره بگم یا فقط باید بحثای علمی بکنم خیلی. راحت هم اه، یه اه... جلسه‌ای بود مشهد خدمت یکی از اساسی درستیم از شاگردان مرحوم مستد صفایی بودم. بعد بهشون گفتم شما چرا وقت به آی صفایی آشنا بودید گفتم در سال پنجا پنج صفایی سال هفتاده هشت به رحمت خدا رفتن حدود مثلا بیست سال. سه گفتم چی شد شما با آی صفایی مرتبط شد گفت داستان داره گفتم داستان چی؟ گفت من زد آخون بودم از آخون جماعت بدم میان قبل انقلاب فعالیت میکردی مبارزه میکردی ولی از آخون جماعت بعدم میومد کجا تو تهران رفیق هم شب اومد به من گفتش که یه آخوندی اومده حرفای خوبی میزنه بیا بریم گفتم از کجا اومده گفتم اقوم گفتم آخون دو اقوم و اینا منو سره ندرم اصرار اصرار که بابا این فرم میکنه حرفاش متفاوته حالا تو یه جلسه بیا میکن من یه جلسه رفتن تموش تازه اون یه رفتم که روی اون آدم رو کم بکنم گفتم برم هر تو جمع خیتش بکنم رفتم رومو رو کم کرد بعد گفتم آقا مثلا چی به شما گفت توی این آدم الان طلبه شده کسی که ضد آخونده الان طلبه شده استاده توی فضای تربیه این برای تدریس میکنه گفتم چی به شما گفت یه جمله گفت خیلی مهم بود دوستان خیلی مهم بود گفت حرف های آهای صفایی سی درصد ماجرا بود هفتاد درصد منش سلوک رفتار برخورده این آدم بود تمام تغییراتی که میبینید حاصل هفتاد درصد است. هفتاد درصد ماجرا بخاطر رفتار سلوک منش این آدم حرفش نیست رفتار سلوک گفتم چی کار کرد؟ حالا مثلا تو همون یه جلسه گفت همون اون سلم رسم نبود یه طلبه جلوی نوجوونی مثل من پاشه ایشون بلند شد تا دم در اومد منو در آغوش گرفت صف به سینه فشار داد یه جوری منو تهمین گرفت که اینگار سالها منو میشناسه قرق محبت کردن. منی که زد داخون بودم همون موقعی که کرده کرد و بوسیدم یه حرفایی میزدم که انگار میخوام یه زخمی به این آدم بزنم ولی اصلا این بار نایم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم؟ این رابطه میساز آدم ها رو اگه ما فکر کنیم بریم یه کتاب خوبی یا به بچه معرفی کنیم اون دیگه مطمئنیم یه سخنرانی جذابی آماده بکنیم بریم توی مدرسه میگفت یه دوست به من میگفتش که تو همین ایام فتنه میگفت خیلی اوزا خراب شده دختر من تو مدرسه بچه‌ها اینجوری فلان شما یه متن آماده کن یه صحبتی آماده کن مدرسه به مدرسه بچرخید برید تو کلاسات بگید بچه‌ها کنفرانس کنن بشن گفتم نمیشه بافند. این اتفاق نمیفته. در بستر ارتباط، محبت، عاطفه این آدم گاردش باز میشه. تازه حرف من براش پذیرفته میشه. نظام ارزشی اسلام میشه. آره. پیامبر اصلا مدلش این بوده دیگه. میگه محبت به ما رحمت من الله لنتله تلهون. لا کون تفزن غلیزا قلبا فزو من حول. چون محبت داشت میشه سن حرفشو گوش میدادن. لازمان یه حرفی که همیشه به والدین تکرار میکنم میگم برید رابطتون رو خوب کنید رابطتون رو خوب کنید خیلی از مسئله حل میشه چالش رو برطرف میشه رابطه رو چی خوب میکنه سه چهار تا راهکار داره پنج تا راهکار داره فقط عنوانش رو میگم دیگه واردش نمیشه چون مفصل یک توجه به نیاز ها و علاقه ها دو فعالیت مشترک سه احترام و تکریم چهار، مهربونی و دلسوزی. پنج خوش اخلاقی بسته نیست بگم این پنج تاس بره این پنج تا هم نیست ولی به تجربه دیدم این پنج تا از حوا بیشتر اثر گذاره برای اینکه رفیق بشی با طرف خب سوم این وظیفه والد پرورش هویت جنسیه پرورش هویت جنسی یعنی چی کلمه جنسی این ما رو به چیز نندازه به انحراف نبره فکر کنیم جنسی منظور مسائل جنسیه آره پرورش هویت جنسی یعنی که دختر ما دختر بودن خودش رو پذیر از دختر بودن خودش راضی باشه دختر بودن خودش خوشش بیاد دوست داشته باشه یه حجمی از بد حجابی ها و بی حجابی ها به خاطر که دختره دختر بودن بدش میاد اصلاً من بعد دختر آفريده باشم من عشق موتور سواری ام بخاطر اینکه دخترم نمیتونه سوار شه. حالا بعد ریشه یابی میکنی چرا این دختره دختر بار نیومده پسر بار اومده برمیگرده تو نوع سبک رفتاری که والده این داشته. اینکه خود مادر تو خونه چقدر از زن بودن خودش راضی بوده. همیشه نشسته با سفره دلش دلشو وای کرده هرچی بدبخت ایمان زناس هست. آقایون برای خودشون عشق و کیفشو میکنن. ما توی خونه فلانی هی این حسارو منتقل کردن یه دختری که داره میشنوه از زن بودن یا برخورده های که مرد ها با زن ها توی خونه توی فامیل دارن. خطابهایی هایی که به شوخی گاهی گفته میشه زن ها بیاغلا زننا فلان هم زننا میکنن. با ضاله میخوایم بحث و باز بکنم دیگه ما توی کارگاهای داریم طبیات جنسی من اونجا پروش اویت جنسی مفصل پسا توضیح دادم بین دختر و پسر فرق گذاشتن این خیلی زیاد اتفاق میافته. مادری به من میگفتش که مادر شوهرم اگه من دختر بیارم منو بیچاره میکنم باید پسر بیارم اینگاه دست من انتخاب بکنم پسردار بشم یا دختردارم پسر جنس درجهیه که تو فامیل ما دختر به درد مثلا لبه تاخچه میخونه خب وظیفه چهارم پرورش حیا و افته زیر بنای حجاب حیاست به خاطر همین میبینیم الان داره زیاد میشه خانومهای محجبه بی حیاه خطرناک حالا طرف بلاگر سلبریتی نمیدونم چیه یا تو فضای خیابون چادریه ولی با همون چادرش داره اشتباه میکنه دیگه. با همون چادرش داره آسیب ایجاد میکنه. آره حالا نمیتونم به یه حکم همه رو برونیم ولی واقعا چادر نیست باز اینجا یه حرف خیلی قشنگی داره و های خدا رحمتشون کنه میگه هجاب یعنی تو با نوع رفتار رو برخورده گرد و قبار بلند نکنی تو مسیری که آدم ها باید حرکت کنه اگه تو این رو فهمیدی که دنیا مسیر حرکت مقصدی وجود داره و همه باید به سمت اون مقصد حرکت بکنن اون موقع میفهمی که نباید توی راه گرد و خاک بلند کنی که رهروها متوقف بشن از جاده منعرف بشن گرد و خاک بلند کردن ممکنه با همون چادر باشه ممکنه با نوع حرف زدنت باشه معیار فقط این نیستش که پوشش کامل باشه لذا حیا و عفت زیر بنای حیا فقط در پوشش نیست حیا در نوع صحبت کردن در نگاه کردن در برخورد کردن آدم گاهی میبینه بعضی از مادرها چقدر با حیان تو برخورد بس بس با نامهرم به جایی که اون نباید نگاه بکنه این مادر نگاه نمیکنه در صورتی که اسلام نگفته زن نباید به مرد نگاه کنه به صورت مرد نباید نگاه کنی نداری مرد گفتن به صورت زن نگاه نکنی بهتره. ولی اون زن نبات، ولی اونقدر حجاب و حیا نگاه نمیکنه. اونقدر حجاب و حیا مستقیم رو در رو صحبت نمی‌کنه، با یک مثلا زاویه‌ای می‌شینه و صحبت میکنه. تو نوع حرف زدن پدر مادرها، هایی که اون موقعی که مثلا با جمع دوستامون دوره هم جمعیم داریم، چقدر حواسمون هست که داریم پرده حیا رو داریم بعدش میخوایم از خون مهمونی بریم بیرون میگیم دخت هم چادره تو سرت کن بریم بابا مگه همه چی چادره تو هیا رو زدی داغون کردی با این جوکایی که گفتی و حیا آموزش اصلیش از طریق عمله یه استادی داشتیم توی بحثای طبیعت جنسی خدا خدایفزشون کنه آقای سفری های دکتر سفری تهران ایشونی این نکتر رو میگفتم نکته جالبیه گفیه مادرهای ما قدیم چقدر مراعات میکردن حتی مثلا اینکه که لباسهای خاصش رو توی کشوی جدایی بذاره در معرض دید نباشه میخواد پهن بکنه خشک بشه در معرض همه این هایی که داشت توی پوششش توی تعویز لباسش، توی جای حتی لباسهاش تأثیر داشت توی اینکه که بچه هاش با هیا ها بار بیا. این اینا زیربناه حجابه مادری که اینا رایت نمیکنه نمیتونه توقع داشته باشه دخترش حجاب رو انتخاب کنه پنجم این وظیفه حس خوب ایجاد کردن به حجابه این خیلی مهمه خیلی مهم یعنی تو دوره خردسالی اگه پدر مادر رو من بگن یه کار به ما بگو انجام بدیم من میگم برید حس خوب ایجاد کنید به حجاب چون عمده تصمیم ها و انتخاب های بعدی بر پایه این حس خوبه اگه حس خوبه شکل نگرفته باشه حرف ها رو هم بدن نمیشنوه استدلال ها هم قانعش نمیکنه ولی حس خوب داره با کمترین استدلال قانع میش الان اکثریت جمع ما طلبه ای برگردیم تو دوره‌های قبلی خودمون ببینیم چرا اومدیم حوزه شاید غالب ما یه حس خوبی از حوزه داشتیم من خودم یادم اون موقعی که سنم کم بود با پدرم می‌رفتم مدرسه علمیه طلبه ها می‌دیدم تعظیم می‌گیرن مؤدبند مهربونن یه حس خوبی از حوزه علمیه طلبه ها دریافت کردم اون حس خوبه باعث شد من گاردم نسبت به حوزه رفتن باز باشه حالا وقتی فکر میکنم استدلال میکنم راحت قانع میشه حالا اینو مقایسه کن با کسی که یه زخم می‌خوره اصلا باباش آخون بوده به خاطر اینکه باباش آخون بوده پدر صاحب بچه اینا رو در برده همش تبلیغ همش این ور همش اون طرف تو خونم اومده هی گیر داده این کلن حسش به هجاب بده حسش به هجاب بده و چون حسش بده استدلال های این آدم رو قانه نمی کنه. من با یکی از منبری های معروف که قطعا همه شما میشناسید یه مناسبتی شد با خانواده ایشون یه برخوردی پیش اومد من یه گفتگوی داشتم بکنی از سبیه هاشون ایشون حرفش این بود که اینقدر ما این بر اون بر رفتیم به ما گفتن شما دخترها جاقایی از شما بعیده زشته این کارا اصلا از هرچی هاد جاقا و دخترهاد جاقا بودن همه اینا بدن میده. اصلا من اگه بخوام ازدواج کنم شرط هم دیگه شوهرم آخون نمشه و این حسش بد شده. با اینکه که میگفت من حرفای بابامو قبول دارم سخنانی بابام شرکت میکنم خیلی هم ولی حسم هم خوب نیست حس خیلی مهمه مخصوصا تو دخترها دخترها پایه اصلی انتخابشون حسه حالا برای اینکه حس خوب ایجاد بشه باز من دوباره اینجا مثلا یه حفش ده تا راهکار بیشتر پونزشونزه تا راهکار نوشتم دوسته تاشو میگم بقیهش حالایی بعدن یه وقتی پرسد مهمترین نشینه که خود مادر حس خوب به هجاب داشته باشه مامانی که حس خوب به هجاب نداره میاد خونه رو ور میداره از سرش میگه خیلی راحت شدیم چقدر گرم بود پختیم پوسیدیم تو این هجاب خوش اخلاق بودن با هجاب ها مادر تو حس خوب خیلی اثر داره من تو اون تجربه هایی که میگرفتم گفتم از پنج و شست ها مادر که بچه با هجاب بودن یکی از چیزایی که روش دست می می گفتن ما می پردیم بچه همونو بازا رو های رنگی رنگی چادرای رنگی رنگی خوشکل براشون می خریدیم این باعث می حس خوب به هجاب داشته باشن یکی می من جشن تکلیف خیلی مفصلی گرفتم اون جشن تکلیف بهترین خاطره شد تو ذهن فرزندم من عکس زیبا با چادر گرفتن به تیپ و قیافه رسیدن یه مادره میگفتش که من بهترین تیپ و چادر برای دختران فراهم میکنم یه نیمان توی خوشگل یه روسری خوشگل یه شلوار خوشگل عجب و عجق تنش نمیکنم احساس نکنه فقط بی هجابا خوش پوشن، شیک شیکبوشن احساس بکنه نه منم خوش پوشم، شیک شیکبوشم حس خوب درست کردنه حتی به اینه که با چادر بچم رو دعوانه کنم الان ارا ار رسیدیم یه خرابکاری کرده چادر تو در بیار بذار یه نیم صد یک صد تو خونه اون تصویری که از یه مامور چادری توی خیابون داره یه خورده وحف بشه حالا یه خواستی برخورد کنه نه همونجا با چادر برخورد کردنه اینا کناره ارا همگی تضایی ایجاد میکنه به قول روانشناسا شرطی میکنه با و یه سری راهکارهای دیگه که حس خوب ایجاد کردن به ششمین راهکار تامین حس زیبایی طلبی بچه ها دختر ها دوست دارن که زیبا باشن و زیبا جلوه بکنن خیلی وقتا حجاب مانع اینه این حسه باید به شکل سنیش تأمین بشه یه مادری باز اینو میگفت میگفتش که من توی خونه اموا اقسام اقلا مهارایشی در اختیار دخترم قرار دادم دخترم راحت بتونه اون حسی که دوست داره تجربه کنه تجربه کنه تو مجلس های زنونه تجربه میکنه ولی چار چوب دارن. مثلا وقتی پدر میاد خونه دیگه میگم خب این کارا نمیشه. وقتی داداش میاد وقتی میخواییم بریم بیرون ولی یه فرصت یا فراهم کردم که این دختر من اون حسی که دوست داره احساس کنه زیباست دیده میشه اینا فراهم بشه این تو همون شیک پوشی هم هست تا اینکه چادر مناسب و شیک بخریم لباس های زیبا براش بخریم این حس زیبا بودنه رو باید تأمین بکنیم نباید چادری شدن مساوی بشه با زشت و بیریخت و بیقیافه و نمیدونم امول و بوی عرق با اینا نباید با هم دیگه تلفیق بشه یک چادری زیبا روی خوشبوشه با حفظ حریم های حیاب و ها. میشه. یکی دیگه از وزایف یا راهکارها بکارگیری تکنیک الگودهیه باز این رو هم از اندیشه رو استاد صفایی وام داریم مرمو استاد صفایی میگن بچه ها پدر و مادر براشون قهرمانن از بد به تولد وقتی بچه ها میبینن مادرشون پدرشون کارهایی میتونن بکنن که اونا نمیتونن بکنن همین که بچه مثلا یک ساله میبینه مامانش میتونه مثلا یه ظرف سنگینی و جواب اجا کنه میتونه آشپزی کنه میتونه بره سر خیابون خرید کنه بیاد تو ذهن اون این مامان بتمنه یه کارایی مثل این که میتونه از روی ساختمون بپنه رون ساختمون برای بچه یه سال این که بره سر خیابون خرید بکنه بیاد در حد همینه که از این ساختمون بپره اون ساختمون مامان قهرمان بتمنه توی ذهن فرزند از این جایگاه الگویه والدین گاهی مراقبت نمیکنند شکسته میشه گاهی مراقبت هم بکنن، بلد نیستن استفاده کنن مراقبت نمیکنن چطور، هم دیگر میذنن تحقیر میکنن. مامانه بابا رو میشور میذاره کنار، بابا هم مامان رو میشور میذاره کنار. وقتی هر دو قهرمان ترک خوردن چکسته شدن، جایگاهشون دست دادن هر دو اوت میشن. کدوم برای بچه ها حالا اگه این مادر با هجاب باشه، هجابم اوت میشه. اگه این پدر متدریج باشه، تدریجم اوت میشه. لذا یکی از راهکارایی اینه که برای خودشون جایگاه الگویی و قهرمانی درست کنن که باز دوباره این هم یک بحث مفصلیه من توی کارگاهیشون 17 جلس درموندش صحبت کردم اینجا فقط دارم بهش اشاره میکنم این الگودهی بیرون از خانواده هم میتونیم تحمیم بدیم؟ بله بله یکی از کارهایی که نوشتم مثلا انجام بشه معرفی قهرمانهای محجبی جذابه منتاین که تو چه دوره ای ما بریم سراغ اولگوهاي بیرونی این باز خودش فوت داره تا جایی که میشه والدین بعد جایگاه اولگوی خودشونو حفظ بکنن. اون جایی که میبینن در رقابت با اولگوهاي بیرونی دارن جایگاهشون رو از دست میدن بعد سری اقدام بکنن و یه اولگوی خوب بیرونی رو معرفی کنن. توی همین این استفاده از حس قهرمانگی رای بچه ها خب اگر مادری تلاش کرد قهرمان شد برای فرزندش و بعد این مادر با هجاب بود شک نکنید بچهش با هجاب میشه قهرمان شد یعنی چی؟ یعنی اونقدر شخصیت جذابه اونقدر قله باحالیه که فرزند آرزو داره یه روز شبیه مامانش بشه اونجاایی که فرزنند آرزو داشت روز شبیه مامان بشه یه روز شبیه باباش بشه همه اون چیزهایی که می بیننشون اون کار تقلید کردند. حتی بین مدل حرف زدن مدل نگاه کردن مدل عینک گذاشتن احساس میکنه با اینها میشه مامان با این میشه بابا مدل روگرن همه اینها رو سرماکن سی میکن سر میکنه تقلید کردن. اگه پدر مادر ها بلد باشن لب که چه جووری قهرمان بشن. بعدثر که لازم نیست چیزی رو بگن مامان باهجاب باششه وچهش پایجاب با میشه. راهکار یا وظیفه هشتم تعریف خط قرمزه کم کم داریم از دوره های خردسالی نزدیک میشیم به دوره های نوجوانی بعد خط قرمز تعریف بشه اگر بخوایم بچه ها با بشن یعنی در این اینکه یک سری آزادی هایی رو میدیم یه جاهایی هم برامون خط قرمز مشخص میکنیم آزادی مطلق نیست هر دلش میخواد بپوشه هرجوری جوری میخواد بیاد بیرون به مثلا بهانه این که ما نمیخوایم فرزنده مو خدایی نکرده اقده ای بار بیاد از این ور بوم هم نباید بیاد خط قرمز داشتن اونجاییه که طرف یک شخصیت مقتدر داره اقتدار تو روان شناسی سه ستا داره یک مقبولیت یعنی اعتبار داره، جایگاه داره، قبولش داره، همون کهرمان بودنه دو، محبوبیت مهربون دوست داشتنیه، دوستش داره با اون قبولیه فرق میکنه. مقبول جذابه محبوب دوست داشتنیه مسی برای بچه های ما جذابه برای چرای دوست داشتنی نباشه یعنی اینجوری نیست، حالا محبتی از طرف مسی دریافت نکردی که هدیه بشناده مامان بزرگش محبوبه ولی شاید جذابم نبوش لذا بچه ها تصمیم میگیرن شبیه مسی بشن چون جذابه قلس قهرمانه ولی از مامان بزرگشون حرف شنوی دارن اگه بهش بگیر مامان جون به خاطر من این کارو نکن میگه چون شما میگی چشم حالا اگر بخوایم خط قرمز تعریف بکنیم باید مختدر باشیم اگه بخوایم مختدر باشیم سه تا مؤلفه رو باید با هم داشته باشیم هم محبوبیت هم مقبولیت سومی قدرت قدرت یعنی چی یعنی این که ما یه جورایی جدیت قاطعیت هم داشته باشیم قانون می‌گذاریم پای قانونمون هم وای می‌سی همین امروز یه جلسه والدین رفته بودم مادرم گفت که من به دخترم گفتم که این رو تختی تو، روبالشی تو، درست بکن. الان یک هفته از جد گوشه افتاده درست نکرده. من باید چیکار کنم؟ گفتن آسون نباید بذاری یه هفته بگذره. خیلی دیگه شما شل گرفتی وقتی یک کار... یا نگو بعد این کار بشه یا اگه میگی باید بشه باید بشه. دو یادم یه وقتی از من سوال میپرسیدن میگفتن که آها بچه ها میشنن پای تلویزیون پانه میشن، چیکار کنیم؟ و یکی از اساتی صحبت میکنم دکتتر روانشناسی کودک داره مشاوره جز مشاوره خوب قومه بهش میگفتم مثلا چه این سوال میپرسن واردین شما چجوری جواب میدید. خیلی جالب بود گفتش که یعنی چی نمیذاره خاموش کنم پا نمیشه. معنا نداره. گفتم یعنی چی کوفقی میگه خاموش یعنی خاموش خاموشگه برو خاموش رو تمام کرد. نه که دعوا کنیم نه که قهر رو بکنیم نه که درگیر بشیم ما. ولی قاطعیت و جدیت خود بچه‌ها میفهمن که یه جاهایی میشه بازی کرد. میشه این مرز رو هی برد یه ذره دیگه وقت گرفت. ولی یه جایی میفهمن که نه. گفت بابا بشین سر درس، یعنی بری و بشین. به دعوا اصلاً نمی به داد و بیداد نمیکشه. میگه دخترم پاشد دیگه وقتم شده پا این خیلی بستگی داره. قبلا این باباش چه جوری برخورد کرده؟ شاید یکی دو بار گرفته. بچه هر آدم گریه کرده، اعتنا نکرده. صفر و ایسادو با تأیید به خارج داده. محرومش کرده، جریمش کرده. گفته اگر این کارا نکنی پول تو جیبی نیست. واقعا پول تو جیوی نداده. این مثل ابر بهارم گریه کرده پول تو جیبی نه. تموم شد. یه بار تمومه. واس خدا رحمت کنه مرحوم آقای صفایی رو. تو همین خاطراتشون نقل شده. خیلی جالبه. پسرشون آقا موسی فکر کنم یه وقتی میگفت، میگفت پدر ما هر یکی دو ماه بار تو خونه یه گرد و خاکی را یه سر و صدایی به یه بحونهی میکرد. کسی هم کتک نمیخورد ولی ما میدیدیم بابامون خیلی عصبانیه. داره داد میزنه گایی در رو حساب کار دستمون میامد. تا دو ماه دیگه ما رو خط بودیم. خداشون ایشون توی کتاب تربیت کودک اون بخش تنبیه رو وقتی توضیح میده تنبیه و مجازات میگه صحنه تنبیه و مجازات اهمیتش و سرگزارش بیشتر از خود تنبیه و مجازاته یعنی اگه بچه رو بگیری بزنی یه ذره دردش میاد بعدش هم آروم میشه ولی اگه نزنیش صحنه صحنه رؤباوری باشه این سرگزارش بیشتره بعد خودش اونجا توضیح میده صدایی که داری دادی که داری میزنی جدیتی که داری از دور صحبت کردن مثلا بچه تو اتاقه داری با مامانش بلن براش صحبت میکنه که مگه من نگفتم نباید این کارو بکنه کی به این اجازه داده این کارو بکنه بچه میگه این که انقدر عصبانیه. از اونجا صدای داره اینجوری به من میرسه اگه برسه دیگه من بیچارم بوشانه. بوشانه هم آره این روش برخورد در کنار اون پشتوانه محبتی جواب میده و بچه رم میکنه بچه رها میکنه جدا میشه. این فقط توی برخورده های صفایی نیست من تو خاطرات مرحوم امامم دیدم نوه امام نوه دختری امام میگفتن که من کوچولو بودم نمیدم هفت سالم بود هیست سالم بود نه سالم بود الات فکرم میگفت به سن تکلیف رسیده بودم می رفتیم خونه همسایه بازی کردن تو حیاط مشغول شدیم شروع بازی می‌کردیم سر صدا می‌کردیم صدا می اومد تو کوچه امام چند بار به من تذکر دادن که مثلا فاطمه زهرا هرکی کی می‌ری بازی می‌کنه یابی نداره ولی سرصداتون تو کوچه نیاد نامحرم تو کوچه است آقا یه بار امام واسه درس برمیگشتن سر صدای ما تو کوچه شنیده بود من زوهر اومدم خونه مامانم گفت برو آقا جون زمین کارت داره. آلا امام که اخم <تحب> میکنه و بزرگاش گفت میکنن <تحب> تو زیر زمین <تحب> <تحب> تو زیر زمین میگه توام تو زیر زمین نشسته بودم من خیلی ترسیدم رفتم پایین دیدم یه چوبی هم دستشونه بعد چوبه رو میکوبیدن به زمین میکوبیدن به ستون گفتم اگه من نگفتم سادات یاد بیرو محکم می‌زدن و بلند بلند به من تشر می‌زدن تموم شد دیگه من حساب کار دستم اومد و بعد, بعد میبودن انقدر چوبه محکم زدن به ستون چوبه شکست تیکه سر چوبه پرید خورد به پای من بعد میگفت پامم سیاه شد دو سه روز بعد امام به مامانم یه مبلغی رو داده بودن گفته بودن این دیه پای فاطمه زهران ندم چیه پا شنیدم سیاه شده دیه هم داده بودن ولی بس بود دیه یه برخورد برای این که من برای همیشه یادم بمونه تو ذهنم بمونه بس. بود. پس سومیش خط قرمز داشتنه این که دیگه رها رها هیچ مرزی نداریم اینم ظاهرا درست نباشه نهم رعایت اصل تدریج باز یکی از حرفایی که توی خاطرات همین پدر مادرها خیلی پر رنگ بود اکثرا میگفتن ما به تدریج میگفت مثلا اولها مثلا برای دخترم شروع کردم از دو سالگی دیگه خیلی لباسای باز نمیپوشوندن بهش یه ذره که اومد جلوتر کم کم مثلا دیگه جوراب مثلا میپوشید چلوار میپوشید کم کم مثلا سعی میکردم آستینش خیلی بلند نباشه مثلا نیم آستین باشه هی hey, یه ذره ذره یه بعد کم کم روسری سرش کردم بعد کم کم چادر رنگی سرش کردم بعد کم کم چادر مشکی سرش کردم این تدریجه مهمه یک دفعه نمیشه بچه ها رو برد توی هجاب قدم به قدم باید بچه ها رو آورد توی هجاب و دیدم که بعضی از اندیشمندان میگن حتی نسبت به اونهایی که الان در سن بلوغ و بزرگ و شل هجاب این تدریج بد بشه یعنی شما الان یه خانومی که تاا هیچی رات نمیکرد میخوای بهش بگی آقا یه جااب یم توی یه دفش بگی یا همه چیز رو پاک کن و همه زیبایی ها رو هم بپوشو نه فعلا این خانم هم که شلوار پاره نپوشه آستینش تا اینجا بالا نباشه فعلا بس حالا فعلا یه چند ماه اینجوری باشه بعد یه قدم جلوتر بعد یه قدم جلوتر با یه تدریجی بعد این آدم رو رسون ظاهرا از بعضی از دستورات دینی تو بعضی از احکام شرعی مثل بحث شراب و بعضی از موضوعات دیگه این استفاده رو هم کردن بعضی از علما که این تدریجه توی مسائلی که مردم بهش عادت دارند درگیرن باید باشه دهم ده عادت دادنه دختری که هیچ عادتی به حجاب نداره خیلی سخته شه با حجاب بشه یه دفعه نه سالگی بالاخره رو گرفتن چادر سر کردن بتونه بازی بکنه در این اینکه کشه میدونم چادر سرشه اینا یه سری مهارت میخواد دیگه بچه ها باید از همون سن چار پنی سالگی شروع کنن این مهارت ها رو یاد گرفتن بهش عادت کردن این با همون رعایت اصل تدریج هم با هم در ارتباط یازده کنترل روابطه الان دارم وظایف والدن رو تو دوره خرد سالی میگن در دوره خرد سالی هنوز قوه شناخت قوه تفکر و تعقل در بچه ها شکل نگرفت وقتی قوه شناخت و تفکر و تحقل شکل نگرفته نمیتونی تحقل داشتیم بچه ها خودشون خودشون مدیریت و کنترل کنن نیاز به کنترل محیطی و بیرونیه یکی از کارهای اصلی که باید والدین انجام بدن اینه که فضا و محیط و ارتباطات سالم باشه اگه یه مادر یا من بپرسه که من بچم و توی مدرسه غیر مثلا مذهبی میخوام تو دوره ابتدایی نام کنم یا راهنمای کدوم مهمتره؟ من میگم ابتدایی چرا؟ چون تو این دوره بچه ها خیلی از محیط اثر پذیر تو دوره متوسط اول متوسط دوم اگه درست کار کرده باشی میتونی انتظار داشته باشی خلاف جرعیان دوستاش حرکت بکنه ولی تو دوره ابتدایی نمیتونی خیلی انتظار داشته باشی. لذا مادرها رفت آمدشون با خانواده ها با دوستان مدارس اینها باید خیلی رایت بکنن حواستشون جمع باشه یه مادری توی خاطراتش به هم گفت خیلی جالب بود میگفت ما هر موقع عروسی هایی دوت ها میکنن که میدونیم عروسی ناجوره خیلی بده, بده برای دخترم خوب نیست دوتا دخترم داشت میگفت ما نمیریم ولی همون شب بهترین لباس رو تن دخترم میکنم سوارش میکنیم با پدرش ماشین سوار میشین میریم بهترین رستوران شهر بهترین غذا رو میخوریم بعد میریم یه پارکی چیزی بهترین تفریه رو میکنیم یعنی یه شب رویایی براشون شب میسازن که اگر نرفته عروسی هست عروسیه رو نخورد آقا اونو الان دارن چه چیزهای خوبی میخورن الان چقدر دارن حالی میکنن الان چه موسیقی داره پخش میشه، الان دارن میرخزن ال صد اون رو نمیخوره بهترین لباس و پوشیده بهترین غذا رو خورده بهترین تفری هم داشته. یعنی روابط رو محدود میکنه در کنارش جایگزین داره اینکه بعضی از خانواده های مذهبی روابط رو محدود میکنن ولی نتیجه این شده که بچه هاشون همش حسات خانواده غیر خانواده رو میخورن. خوشبال فلانی و با دیگه الان رفتن شمال دارن چه و حالی می ما چون مثلا مذهبی هستیم نمییم. خوشباله فلانیا رفتن سینما، خوشباله فلانیا رفتن برج میداد خوشباله فلانیا رفتن فلانجا. ما هیچ جا نمیریم. چون بابامون اخونده، ما هم مثلا مذهبی هستیم، این محیط ها ناسالم. باز توی خاطرات آیه صفایی دخترشون، یه وقتی ما جمع بچه های تربیت بنیادی دعوتشون کردیم منیره خانمشون، گفتن پدر ما هر هفته آخر هفته ها بلا استثنا ما رو میبود اطراف قم تو روستاها میرفتیم گردش تفری آخر هفته مال خانواده ما رو می برد شمال می‌برد لب دریا اونجا هم خیلی سخگیری نمی‌کرد، جالب بود می گفت ایشون ما گاهی حتی اگه می خواستیم چادر اونو برداریم با مان تو نمی‌کرد. نمی کرد سرمی کرد یه جایی که خود خلوت و به ما اجازه می‌داد راحت باش محروم نشن بچه ها به خاطر کنتر روابط و آخرین وظیفه تو دوره خردسالی و کودکی که از همه این وظایفی که گفتم شاید مهمتر باشه بحث پرورش خسلت های بنیادیه که مرموستات صفایی توی به این به صورت جدی پرداختن خلاصه حرف‌های حرف های توی این موضوع اینه که آقا در جامعه متضاد که بچه ها در معرض آدم های با اندیشه ها و سرک زندگی متفاوت اگر بچه‌ها ریشه دار بار نیومده باشن رنگ میکنن برای اینکه بچه‌ها ریشه دار بار بیان استحکام داشته باشن سه خصلت رو باید درشون پرورش بدی در دوره کودکی یک هویت مستقل دو آزادمنشی سه تفکر اینکه چی هن اینا و چه جوریه و فلان و اینها دیگه ترابتون کتابه صفای کتاب تربیت کودک و انسان در دو فصل فصل اولش هم خودشون توضیح داده ولی خیلی مهمه خیلی مهمه این ستا رو در بچه‌ها ایجاد نکنیم همه راهکارهای قبلی رفته باشیم باور کنید جواب نمیده خیلی بچه ها هستن که حس خوب دارن روابطشون کنترل شده رابطشون با مامانشون خوبه همه اینا هست ولی وقتی میرسه به دوره نوجوانی میرسه به دوره جوونی نمیتونه توی فضای جامعه مقاومت بکنه در برابر شبهات اجاب نمیتونه ایستادگی بکنه در برابر مطلعکا و طعنه ها و, و بی‌احتنایی ها و فوشا نمیتونه مقاومت بکنه میذاره کنار. تا یه جای تعمد و تفکر چقدر مهمه. من وقت دارم چند تا روایت دانلود تفکر بخونم، وقت دارم اونجا. خیلی. خیلی برای من جالب بود. من چند روز پیش یه برنامه‌ی توی فضای مجازی داشتیم وبینار ترورش فرزند متفکر، به بهانه‌ی این وبینار رفتم یه دور روایت تفکر رو مرور کردن. چقدر تو دین ما بهش توجه شده و ما تو تربیت برامون درجه یک نیست پدر مادرها براشون اولویت نیست اساس بالای طرف میگه اینه میگه به جای که اینقدر گیر بدی بچه چند تا سوره حفظ کرده نمیدونم چقدر مفایم دینی برده ریخت و قیافش چقدر مذهبیه مکبر مسجد نمیدونم رو منبر میاد سخنرانی میکنه بیا ببین چقدر بچه ذهنه فکر بر اومده بعد روایتو نگاه میکنی واقعا روایت همینا میکنه این رو بهتون کن شما ببینید برداشتتون از این روایات شریف چیه روایت در قرر الحکم اومده همه این روایات رو سراداش هست اگه خواستید بعداً خدمتتون تقدیم می‌کنه می‌فرماد الیکا بالفکر فانه رشد من از زلال و مصلح اعمال فکر از زلالت و گمراهی نجات میده عمل رو اصلاح آقا ما درد ای غیر از این داریم توی فضای طبیعت میخوایم بچه هام گمره نشن راهش رو دارم میبریم الیکبل فکر فکر خودت میخوای گمراه نشه فکر بچه میخوای گمراه نشه عادتش گم عادتش بده فکر کردم مردم میخوای گمراه نشن عادتشون بده فکر کردم الیکبل فکر فناهو رشد منزله و مسله آل آقا بچه من هزار تا رفتار غلط داره فش میده ارتباط با جنس مخالف داره بی ادب خودخواه فلان فلان فلان فلان مصلح الاعمال فکر اهل فکر بارش بیار این اعمال خود به خود حل میشه ریشه است بنیاده بعدی فکر المرء مراتون طریح حسن عملهی من قبهه فکر انسان آینه است که به اون نشان میدهد خوبی عملش رو از بدیش. مگه شما نمیخواید بچه ها خودشون تشخیص بدن چی درسته چی غلطه همه پدر مادرم یه همین دغدارششون نیست این بچه من نمیفهمه. هفته مثلا رفیقش بهش همین امروز تو این مدرسه می یکی از بچه ها بسته سی سیگار آورده رو مدرسه دخترانه راهنمایی مترسه اول بچه سی سیگار آورده و بچه ها تعارف کرده بچه ها هم گرفتن کشیدن. آقا نتونسته این بچه تشخیص بده چ چی غلطه؟ خ خب چرا تونست تخ چی درسته چ رو باد میگه فکر فکر المرء طریحه حسن اولی منقبه رو فکر گذاری کن فکر بهش نشون میده چی درسته چی غلطه تا کی میخوای خودت وایسی کنترل کنی تو که نمیتونی همیشه ها رو کنترل بکنی بیا فکرشو پرورش بده خیالت راحت تنها هم که بود تو اردو هم که بود تو مدرسه هم که بود جلو داره مدرسه تو سرویس هم که بود هر پیشنهادی سر روش خری نمیپذیره اساسه. آقابت به خیری اگه دغدغه والده نیست دغدغه ما نیست این روایت امیر المومنینه میفهماد من که دورد او هستانت آقابتوی کسایی که زیاد فکر میکنن آقابتشون به خیر میشه کس دورد فکرتو زیاد یه یعنی که گهگاهین یه شب قدری مثلا یه ذره فکر میکنه. نه یعنی کسایی که زیاد فکر میکن. ما چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنیم روی اینکه بچه‌هامون عادت کنن به فکر کردن، زیاد فکر کنن. یه مثالی می‌زدم برای والدین شاید خالی از لطف نباشه اینجا بگم. گفتم مثلا شما برید تو اتاق دخترت، لای درو واقع کنی بعد ببینید دخترت رو سجاده مثلا 8 سالشه که سجاده ی اندخته چادر نماز سرش کرده داره چقدر دلت غنج میره، کیف میکنی یا قربونش برم، چه دختری دارم ما کیف میکنه دیگه اینو میبینه. میگه آره اگه رفتی لای باز کردی دختره مثلا پشت میز نشسته اینجوری یه کاغذی هم جلوشه یه قلمی هم دستشه یه چیزی می‌نویسه دوباره کلهشو میاره بالا دور یه چیزی می‌نویسه دوباره کلهش معلومه داره یه چیزی فکر میکنه اینجاست چرا دلت قنج میره اصلاً بینی ممکنه یه چیزی هم بهش بگی اینقدر وقته تو تلف نکن بشی عشقاتو بنویس بابا داره فکر می‌کنه رو میگه که زمان محدود فکر کردن ارزشش از زمان طولانی عبادت کردن بیشتره آیا در نظام ارزشگذاری والدین، معلمین، مربیان، آخوندها طلاب محترم اینجا افتاده که اگر یه آدمی زیاد اهل فکر کردنه ارزشش از یه آدمی که زیاد اهل زیاد زواهر دینی رایت میکنه بیشتر این توی زهن ما جا نیفتاده لذا هدفگیریمون توی فضای تربیت اینه که ظاهر درست بشه. نه این فکر کردن درست بشه روایت بعدی اصل و سلامت من از زلل اساس و اصل این که بچه ها از زلل یعنی از لغزش سالم باشن دوچار لغزش نشه تو فضای مزید تو فضای حقیقی نلغزه چقدر نگرانیم اصل و سلامت من از زلل الفکر قبل الفعل و, و قبل فکر کردن قبل از عمل یا همون اندیشه کردن قبل از حرف زدن این دوتا رو در کسی پرورش بدیم عادت بدیم به اینکه آقا قبل از هر تصمیمی قبل از هر عملی فکر کن این آدم لغزشش خیلی کم میشه برگردیم به تجربه خودمونم همینطوریه انتخاب هایی که توی مسیر زندگیمون تا کردیم اون جایی که انتخابمون غلط بوده چقدر قبلش فکر کردیم؟ یه دفعه جرفت شدیم در لحظه تصمیم گرفتیم یه چیزی خریدیم یه هفته بعد پشیمون شدیم یه جایی رفتیم یه کاری رو کردیم یه حرفیو زدیم بعدا خودمونم ناراحت شدیم بیام روی این گذاری کنیم که بچه ها عادت بکنن قبل حرف زدن قبل از اقدام فکر کنن جلوی لغزش ها گرفته میشه و آخریش یه روایت از اون طرف آقا یه فکر بچه‌ها ضعیف بود چه اتفاقی میفته روایت همین یه من ضعف فکره قویت او کسی که فکرش ضعیفه من زعفت او کسی که فکرش ضعیفه قویت او غیرت دیگه شما همه استاد منی یعنی فریب خوردن فریب خوردنش قویه یعنی مشتی زیاد ر بره فریب میخوره رفیقاش گولش میزنن فضای مجازی گولش میزنه همه گولش میزنن به تعبیر آقای صفایی آلت دست دشمن میشه مذهبی بیفکر آلت دست دشمن میشه تو جنگ سفین شرحبیل ماجراش رو دیگه همه شنیدید دیگه یک آرف بظاهر عالم متدینی میشه عنصر اصلی جذب نیرو و بسیج علیه امیر المومنی. چرا چه آدم پوک بی مغزه معاویه با چار تا شگرد که امراس بهش یادش میده این آدم داره میاره جام چا میندازه که امیرالمومنین عثمان رو کشته وظیفه شرعیه ماست بریم دفاع بکنیم از خون خلیفه این آدم میگه به جای میرسه که به معاویه میگه اگه تو اقدام نمی‌کنی من خودم اقدام میکنم الان را میفتم تو شهرام میرم مردم بسریع میکنم معاویه میگه دیگه شما هرچی دستور بدید ما هستیم اگه شما حکم میکنید که ما بعد قیام کنیم علی همینمو چشما می‌کنم بعد این خیلی خطرناکه ها خیلی خطرناکی که ما یه عمری سی سال 40 سال یه آدمی متدین بار بیاریم بعد کامل دولو بیفته دست دشمن همین استفاده کن علیه خودم خیلی خسارته خیلی خسارت. خاطر هم میگم این ستا حوییت این ستا خسلت بنیادی ترین خسلت هایی که تو این دوره بعد شکل بگیره من فکر کنم دیگه وظایف بعد از بلوغ رو بخوایم واردش بشیم نمیرسیم جمعش بکویم. بابا ان شما بگیم اگر تونستیم جلسه دیگه در باشیم یا نه متو اگر حازم شما دستور بدید ما انجام بزرسه بزرسه. بزرسه. بزرسه. تو فضای منجازی ما رو دنبال می‌کنن پیشنهاد میکنیم که حتما کانال شما رو دنبال کنن و از مطالب شما استفاده کنن ولی ما اگر توفیق داشته باشیم چون دوستان مطالب رو پیاده سازی میکنن و فروبری انجام میدن و متن و بقیه مطالب شما رو هم مکتوب کردید داشته باشیم میگه زحمت مکتوب کردنشم یعنی بازی رو فقار ما بفرستیم که مزونده. گفتم من این محتووا که اینجا خدمتون تقدیم کردن در قالب بسته ریحانه شش جلسه ضبط شده با تدوین خوب تو مجموعه خودمون آماده کردیم تا الان 8 هزار نفر استفاده کردن میتونیم همون جلسات خدمتون تقدیم بکنیم هست متن خودم خاصید میتونم بدم ولی اون جلسات فکر کنم تفصیل داره متن من خیلی توضیحات شاید نداشته باشه خیلی رو سر, سر متشک چون وقت گدشته دو تا سوال یرتون داشته باشم. مطالبی که فر بودیم هر چند همطور که ابتدام اشاره داشتید نظر به حوزه خانواده بود ولی ما میتونیم تعمییمش بدیم با حوزه جامعه. ما همطوری که اشاره کردید تا اگر بنا با که رفتار تغییر پیدا کنه ابتدا باید رفت سراغ حوزه گرایش و بعد حوزه بینش ها اونجا تغییر ایجاد کرد و بعد طبیعتا و به صورت طبیعی رفتار تغییر میکن. به نظر میرسه که ما نیاز به یک در حوزه عاطفه شما ظریف دادید مثل به حوزه بینش که درست یعنی نقطه عزیمت ما باید عواطف باشه گرایش ها باشه تو دوره کودکی چون تو دوره کودکی بله. نمیشه شناخت بله حتی به نظرم حتی معتقدم نوجوان جوان هم هم طور که فرموود اگر حوزه گرایش های خورده نقطه عزیمت این نمی می سراغ بینش دوباره برمیگردیم رابطه متقابلی داره ما چطور میتونیم چه راهکارهایی برای تقوییت حوزه معنوی چون معنوییت در حوزه گرایشاته چه راهکارهایی به خانواده ها،, مربی ها پیشنهاد میدید که فضای معنوی رو ما بتونیم توی خونمون توی کلاسمون توی بچه‌هایی که ارتباط داریم تقویت کنیم که خود این همون نقطه عزیمته بشه برامون به نفع. سوال خوبیه. دو سه تا نکته به ذهن من میرسه. شاید اولینش و مهمترینش اون حس خوب معنوی خود والدینه. من با همین سن و سال خودم وقتی واقعاً گاهی می‌بینم یه آدمی یه نماز با حالی می‌خونه، حسم به نماز تغییر می‌کنه. با اینکه به ظاهر آدم دیگه سن و سالی ازش گذشته، باید منطقی برخورد کنه، فکر کنه آقا اگه نماز استدلال داره که خب خو حسّت خوب باشه، استدلال هم نداره که حسّت بچشه. ولی وقتی می‌بینی یه نفری با یه حال خوبی داره نماز می‌خونه. با یه آرامشی، با یه تمنینه‌ای ته وجودت حس خوب پیدا میکنیم کنی به نماز اولین چیزی که من از من خیلی اهمیت داره ادابازی نکردن و حس خوب داشتن خود والده شاید شما هم دیده باشید من دیدم توی دوستان رفیقای خودم مثلا طرف باباش مدداهه واقعا عاشق امام حسینه یعنی پرپر میزنه دلش برای کربلا برای امام حسینه برای روزه عشقش در میاد ادایی نیست بچه‌هاش هم هم جوریه. فیلم بازی نمیکنه. پس اولین چیزی که حس خوب میده حس خوبیه که سلام خود طرف تجربه کرده. اینو توی فنون بازاریابی هم میگن‌ها. میگن فروشنده خوب کسیه که قدرت انتقال حس داره. و قدرت انتقال حس وابسته به اینه که تو چقدر خودت حست خوبه. بعد مثال میزنن میگن که همه ما فروشندگی رو تجربه کردیم. شما هم فروشنده ای شما هم که آخوندی اما به سری فروشنده‌ای. میدونی چه تو تو نرفتی یه بار یه جای یه فیلم خوب دیدی، یه آدم باحال دیدی، اون برای مثلا خانمت، برای داداشت تعریف کردی، گفتی واقعاً چه فیلمی بود، شاهکار، خیلی در تو داشتی اون فیلم رو براش فروش اتفاق چرا؟ چون حس خوبه تو از اون فیلمه داری به خواهرت منتقل می خارج خواهرت بگه خودوب سینما بود منم فردا برم کدوم رستوران بود منم فردا برم اکدوم مغازه خریدی منم فردا برم واقعا ما این حس خوبه رو از دینداری خودمون دریافت می اگه دریافت بکنیم اصلا بیان خاصی نداره مگه مثلا خواهر شما بیان خاصی و کلاس رفته میاد ظرف سه سود شما رو تحریک میکنه برید از اون بکنید. نه واقعا اون حسر چشیده آقا مغازه‌ی قیمتش عالی فروشندش برخوردش خوب تازه تخفیف هم داد تازه و این نفسندی بیار پس میگیرم چی از این بهتر اگر واقعا کسی حس خوب از دیداری دریافت کرده باشه بیان خوبی لازم نداره لا خداگاه منتقل میشه تو حرفاش تو نوع نگاهش به خاطر این بادم گایی میره بعضی از این پیر مردها پیر زنها سوادم ند بلی یه جوری از امام حسین، از خدا، از پیغمبر، از امام زمان حرف میزنن بدون استجلال به دل آدم میشینه یه اولیش دومیش تجربه های معنوی باحال فراهم کردن مثلا یه هیئت باحالی که اونجا بچه ها اون وسط سینه میزنن بهشون کیف میده تجربه بکنن مذهب. یه بار مثلا یه اردوی مذهبی مشهد با بچه های دانشگاه فلان رفتیم هم خندیدیم هم گریه کردیم هم چیز مثلا مشهد رفتیم حرم هم رفتیم پارک آبی یه تجربه شیرین معنوی یه بار فلانی رو دعوت کردیم یه مناجات نیمه شب مثلا توی جای تاریکی توی بیابونی بر ما خوند خیلی حسه باحالی داشت یه تجربه های معنوی شیرینی رو فراهم کردن به فراخور سن بچه ها این تجربه ها باعث میشه بچه ها گیرشن بمونن کم نیستن تو همین برنامه لاکجیغ تا خدا من به بهانه این کار هجاب یه تعداد جلساتی از این برنامه لاکجیغ تا خدا هم به بچه ها گفتیم بشین نگاه کنید نکاتش در بیاری در وضع رو نگاه کردیم یکی از پرتکرارهاش همین بود مثلا توی اردیه راهیان نوری زلفش گره خورده بود به زلف شهیدی به یه چیزی یه حس خوبه اونجا یه دفعه این آدم رو زیرو رو کرده این هم تأثیر داره تجربه های معنوی خوبه اینجوری سه این چیزی که تأثیر داره توی حس خوب اینه که اون آدم مذهبی ها آدم باحالی باشن الان نمیگم فضای مذهبی باحال باشه نه این آخونده ولی میاد باهمون فوتبال من تا باش نرفتم بس ازا نمیدونم بس چه حالی داره ولی تو فوتبال با این آخونده به ما خیلی خوش میگذره خیلی هم با هم شوخی میکنیم هستن نسبت به مذهب خوب میشه اینو باز ما هممون تست کردیم تجربه کردیم یه کسی توی فضای دیگه با ما حس خوب داشته رفتار خوب داشته نسبت به اون فضا علاقه پیدا کرد یه دکتری توی قم بود دکتر باهر شما میشناسید احتمالاً ما بچگی رفتیم پیش شما اداله رفتید آدامس می ما از دکترا خوشمون اومد و به خاطر اینکه دکتر باهر بهمون آدامس میداد وقتی مامانم می‌خواست براتون دکتر با اینکه از آمپول اینا می ترسیدیم اگه میفهمدیم میخواد بره دکتر باهر می‌گفتیم برید چنین یعنی آدم یه تجربه شیرین توی فضای دیگه برای آدم ایجاد کرده بابای مامانه اگه یه تجربه شیرینی برای دخترش ایجاد بکنه توی فضای دیگه حس اون آدم نسبت به دین خوب میشه باز من یه خاطره دیگه بگم خیلی پر حرفی دارم به ببخشید نه آخرین خاطره یه کتابی نوشته شده در مورد آقای صفایی خاطراتشون رو جمع کردن به اسم ردپای نور آقای ارسلنجانی نوشته این کتاب رو سه جلد یه جلدش خاطرات تربیتی ایشونه اونجا خود این آقای ارسن میگه که من رفته بودم دانشگاه شاهرود شب قدری بود یه دانشجوی دست یه دانشجوی دیگر گرفت آورد توی اتاق من حالا پوششش هم خیلی نامناسب حالا ندارم با رکابی بادشه میدارم مایوم گاه جاینه یه خود نصیحت کنی شب قدره پانه میشه تو مجلس تا بعد من مثلا بشینم در مورد خدا و ارزش شب قدر و اینا صحبت کنم من از اون آیه شنیده بودم که ها با نیازهای آدم‌ها رو شناسایی کن درد آدم‌ها رو بشناس دردشون رو برطرف بکن مشکلشون حل میشه با خدا پیغंबर همینجور تی در تاریگی گفتم که عاشقی، رفیقش بودش آره اتفاقا یه دختری رو میخواد در به در دنبال اون دختره گفتم ای چه جالب شروع کردم صحبت کردن در مورد اون دختره حالا شب منتظر من به این بگم بیا بریم شب قد مثلا جوشنکری شکرایی بخونما دیدم اون دختره صحبت میکنه خب چه کار کردی چه دختریه خانواده اشو میشناسی نمیشناسی چه اقداماتی کردی دو سه روزم بسیج شدیم بریم این دختره رو خانواده اشو بشناسیم و ببینیم میشه این وصلتر یه جوری شکل بدیم یا نه آقای این آدم اون شب یه خورده صحبت در مورد خدا پیغمبر شد در مورد کلی سوال و داشت که من اصلا در صحبت نکردم تو اون دو سه روزی که ما با دوستای دانشگاه رافت دلم دوباره که خونه طرفو پیدا بکنیم با پدرش ارتباط بگیریم و بگیم آقا دخترت رو شوهر میدی نمیدی فلان اینا یه روزاشیم برمیگشیم تو ماشین گفتم مثلا یارت یه سوالی داشتی در مورد خدا و فلان اینا میخادم باهاش صحبت کنم جواب بزن کنار زدم کنار از ماشین پیادهش رو, رو کرد باسونگو خدا جون خیلی دوست داره سنه استدلالی نشو به اینا چیزی حسش خوب شد به خدا چرا چون یه دردش و یه اخوندی رواکه سازه دوا هم نکرده در صدد دوا کردن بر اومده واقعا اینجوری هم آدم هم. من یه سوال دیگه بپرستم من طبیعتاً همونطور که شما بشاره کردید نقطه عظیمت و آغازین همینه ولی ما باید سمت فکر کردن ما چجوری بچه همون چجوری آموزش بدیم فکر کنن؟ یا بگیم که این چه راهکارهایی، خیلی رویش بزنی. هایی خیلی برگر دو تا رو بتونیم خیلی مفصل تو... هم هست تو دوره کودکی یه چیزه تو دوره بعد از روغ یه چیزه من اینو محبت دوره... به جسرم میکنم اینو با گرایش با عاطفه گره زدم گردم جلو بعد اگر اینجا امخ دم، نیفته سراغ فکر کردم یادم سطحی که ده. تو جف قرار گرفته حالش ده ده ده. خوبه حسنش خوبه قدار دوست داره دو دیگری حسش بد میشه پایدار نیست تفکر دو گام داره گام اول عادت به فکر کردنه گام دوم درست فکر کردنه تشکر کنم تفکر دو گام داره گام اول عادت به فکر کردنه گام دوم درست فکر کردن یعنی ما تو گام اول تفکک اینو نداریم که فرزندم درست فکر کنه نتیجه منطقی فعلا فقط عادت کنه فکر کنه. ادای فکر کردن باید در بیار. همین بر ما کافیه. تو دوره کودکی اون چیزی که بعد اتفاق بیفته خسارت تفکر کاره به تعبیر ایزفایی. یعنی عادت به فکر کردن. این که این بچه قبل از کارش عادت کنه به فکر کردن ولی اون که نتیجه گیریش استنتاجش خلقت باشه. بعدا روش درست فکر کردن رو بهش یاد بیم. پس حالا می‌خوایم تو گام اول عادت به فکر کردن رو ایجاد بکنیم. چه این عادت به فکر کردن رو ایجاد بکنیم؟ اول باید بدونی فکر کردن یعنی چی. فکر کردن همونجوری که حاج آقا گفتن با مسئله آغاز میشه. بعد از اینکه مسئله برای طرف به وجود اومد، حالا فرق سوال و مسئله رو شما خودتون بهتر از من میدونید. طرف اطلاعاتی که توی ذهنش هست و کنار هم قرار میده به صورت یک پازل میچینه با تمرکز به کارگیری هوشش تلاش میکنه حدس بزنه پاسخ رو به چهارتش فاکتور نیاز داره مسئله اطلاعات هوش و تمرکز و در گام چهارم روش درست منطقی چیدن کناره هم دیگه این اگه بخواین بچه ها رو در نظر فکری تقویات بکنیم تو همین چهار تا باید کار بکنیم یک بات بر بچه ها مسئله این چارش مثلا رسانه پرسشگری رو نابود میکنه به مادرهایی که رسانار زیاد در اختیار هاشون قرار میدن، ها پرسشگریشون نابود میشه. ها خود به خود پرسشگری دارن، سوال دارن، مسئله دارن، ما بی بههلی میکنیم، بهانه میدیم، این روحیه کور میشه. بعضی وقتا سوال رو بعد ایجاد کرد. منتهی اینجا باید زبل باشیم که در مورد چه موضوعی سوال رو ایجاد کنیم، در مورد موضوعی که بشه دغدغه‌اش کرد. توی کلاس 8 مثلا دو بوم سه بوم متفاوت دبیر عاشته هش ساله ما آقای دبیر داده و ولادت فقی سوال تر بوده اصلا درگیری ذهنیم بچه این نیست تنها بیا داده موضوعاتی که این با هم باشند درگیره یه مسئله که هم یا نباشه درگیر آقا الان تو کلاس اگه همه بچه ها بگیم ایکی از بچه ها رو بخوام بزنن یا مسخره بکنن شما چکار میکنی ولادت تو می‌چکار آقا این موضوع که هر روز ممکنه پیش بیاد تو مرسی بیا مرس. مرس همین فکر کنی. بیا در مورد یه موضوعی فکر کنیم که هر روز بچه باهاش درگیره با بچه پنج ساله میشه فکر کرد یه اسب بازی گذاشتیم جلوش این اسب بازی رو میخوایم با یه حرکتی بزنیم چه میدم بازیزی گذاشتیم اون بالا. پسر هم چش میتونیم ی بالا بالاور بابا صندلی بذاریم بریم بالا خب بزار ببینم میتونی بریم صندلی میز چه قطشون می نمیره خ خب دیگه چ کار می‌تونیم بکنیم تو هر دوره سنی به تناب به حال بچه میشه سوال ترکت مسئله حرکت. گا بعدی اطلاعات فراهم کردن برای بچه هاست که باز اطلاعات فراهم کردن دو روش داره روش تزریقی یا روش تدبره تزریقی رو معظم سال صفای قبول ندارن تدبر رو قبول دارن تزریقی یعنی از بیرون بچه‌ها رو مثل استخ به آب اطلاعات بستن تدبر یعنی در بچه ها جوشش ایجاد کردن یک نگاهی رو در بچه ها باز بکنیم که از کنار اتفاقات و ماجراها سخیرت نشن پشت صحنه‌اش رو بتونن تحلیل بکنن اگه این حس رو، این روحیه رو بتونیم ایجاد بکنیم بچه ها دستشون پر میشه از اطلاعات چرا چون هر اتفاقی میفته دور و برشون هر برخوردی می‌بینه حالتهای خودش کلی براش برداشت داره نکته داره دریافت داره من چرا الان ناراحت شدم چرا فلانی خوشحال شد این چرا اینجوری سلام کرد همه اینها پشتش یه ماجراییه دیگه آدم هایی که عادت کردن به این تحلیل و پشت سر آرو دیدن کم کم یعنی خیلی چیز دستشون پر میشه یه تو دستشون میاد که تو کتابام نیست تو دورای آموزشی هم نیست ایشون میگه اینو اجاد کنید در بچه‌ها تدبر یاد بدید به بچه‌ها بقیه‌اش هم هست دیگه ولی من اون چیزی که خودم به تجربه رسیدم از همه مهم‌تر برای اینکه بچه‌ها اهل فکر وار بیان اینه که مسئله به بفراخور علاقه بچه بچه‌ها بذاریم وسط دعوش گفته بکنیم میتونی یه کارتون پخش کنی ما توی مجموعه تربیت کارتون پتومت برای بچه‌ها پخش می‌کنید بعد آموزش می‌شید صحبت میکردیم. آقا این مثلا می‌خواد این درخت رو ببره تو. اگه چیکار می‌کردیم مثلا پنجره‌ها خراب نمی‌شد می‌اومد ور تو. مثلا چیکار وقت می‌کردیم می‌اومد ور تو. یکی میگه با اره می‌ورتی کجش می‌کنی، یکی میگه از در می‌بوره، یکی میگه از دودکش می‌داد پایین. بعد مدل‌های مختلفو هم دیگه بررسی کرد. هر دودکش بدیم پایین میشه، نمیشه، فلان. موضوعات جذاب و وسط، خاموش گفته بکنین. بچه‌ها کم کم عادت میکنن به فکر کردن. حالا وقتی عادت کرد به فکر کردن، یه خورده از خامی و پختگی در اومد. تازه نوبته اینه که سر موضوعات اصلی دینی باش بحث کنیم مثل خدا مثل حجاب مثل نماد ولی والله قبل این بحث بکوین بسا رو سوزوندی نمیگیره فقط ما اطلاعات یه طرفه میدیم اطلاعاتو دست خورده میکنیم بهش نمیرسه بعدا هم دیگه آتشی نداره دوبارهش بگرده بس چرا نکن خسارت وضعیف خودسالی رو گفتیم دفت وضعیف آسانگورو خانه گفتیم یه میرسوانی هم شیوه و اجتماعی شلح جاب ها رو شلح جاب ها مختصر ماجرا اینه که این شلح جاب ها بعد ریشه یابی بشه بعضی هاشون از اون قشرایی که آسیب دیدن بد دیدن از متدینین و مذهبی ها اینو نباید کار به کارش داشته باشی این باب فعلا بهش محبت کن باش خوبی کن حس خوب بهش بده ای یه آخونده مثلا مهربونم پیدا شد ای مثلا یه چادری معدبم پیدا شد ای یه کسی که به فکر ما هم باشه پیدا شد شاید شیش ماه یک سال بعد همین کار رو رو تا این آدم گاردش باز بشه تو گام بعدی حالا اونی که گارد هم نداره یعنی زربه ای ندیده و شل جابه باید تو قدم اول این ارتباط و دوستی شکل بگیره یعنی قدم اول ارتباط و دوستی قدم دوم جذب و سمیمیته یعنی ارتباط و دوستی تبدیل بشه به یک سمیمیت قدم سوم برداشتن موانعه موانعی دارن بعضی از آدم ها که این موانع باعث شده نمیاد سراغ هجام گاهی مانش اون احساس حقارت هست این احساس هقارت رو تو, تو پوشش ندی هزار تا منبرم بری این آدم نمیتونه گاهی خیلی دهنبین بودن زواهر براش مهم بودن است همه چیز رو تو زواهر خلاصه دیدن است اعتماد به نفس نداشتنه گاهی اصلا اهل فکر نیست یعنی یه مقدمات اینجوری رو باید فراهم کنی گاهی غرور داره فکر میکنه خیلی میفهمه بعد بادش رو ذره خالی کنی موانع که برطرف شد رفاقت که شل گرفت این آدم خودش دهن باز میکنه و شروع میکنه چیزهایی رو پرسیدن شاید از هجابم شروع نکنه ا یه جای دیگه ای شروع میکنه هنر مرمبینه که از هر ایسکای او شروع کرد او رو ببره تو مسئله بنیادی دی. اصلا این که اصلا تو چی هستی؟ چقدر استعداد داری؟ ارزشات چیه؟ هدف تو زندگی باید چی باشه؟ خدا هست نیست دنیا چه جایگاهی داره؟ معادی هست نیست نظام ارزشی این آدم قدم به قدم با یه حوصله و تعنی تو گفتگو یعنی یه سوال میپرسه تو سوال یه جمله جواب بدم یه سوال دیگه بذارم تو دومنش بره فکر کنه برای هفته دیگه بیاد دوباره دو جمله سوال بکنیم یه سوال دیگه بزارم تو مشتش برای هفته دیگه بیاد شش ما یه سال طول بکشه تا این نظام ارزشیش تغییر بکنه نظام ارزشیش که تغییر کرد یک دفعه همهش سبز میشه یک دفعه همهش یه نکته اینجا مطرحه یه فضایی ممیم برای کفتوگو کردن سمتش. میکشونیمش سمت خودمون با همین مسائل هستیم اما فضای جامعه قدر قویه مثلا همین کسانی که تلاش دارن بر بیهجابی نشده اجابا با بدن نماها به تعبیری اینا اجازه گفتگور رو غرض میکنن یعنی این گیره هر رو نمیذارن ایجاد شه. چون میله که شما فرمودید یه حرفی استادمون آقای آبدینی داشتن میشناسید احتمالاً جای آبدینی سمت سش. خدا سشن باداشون میارن یه درس تفسیر دارن من اونجا خدمتشون میرسم ایشون یه وقتی درس تفسیرشون اوایل امسال میگفتن به بهانه همین فتنهایی که به وجود اومد ایشون میگفتن که شما فکر میکنین راه تغییر دادن جامعه توی مسئله مذهبی چیه شافنگ گفت بعد باید رو بعد اجازه کار کنید شما گفت اتفاقا حالا تعبیر از منه دیگه مضمون حرفشون درمونطقه ان شاءالله درست فهمیده باشه حرفشون بود که بر اساس اون چیزی که ما از دین برداشت میکنیم جامعه مؤمنین بعد روابطشون رو با هم مستحکم تر بکنن بهتر بکنن تا روند اثرگذار باشن یه تعبیری داشتن خیلی تعبیر جذابی گفت هر مؤمن جاذبه بداره. وقتی مؤمنین کناره همدیگه قرار میگیرن جاذبه و مقناطیسشون قدرتمندتر میشه باید یک گروهی از مؤمنان با روابط مستحکم شکل بدی تا اونقدر جاذبهش قوی بشه تا بتونه اون آدم تو خودش حضم بکنه بعد من بعد جلسه رفتم پیششون گفتم که من که تو کار تربیتم برداشتم از حرف شما اینه که اگه من رفتم توی مدرسه ای... نباید برم سراغ مثلا دختر بعد هجاب و پسر بیدینا اونا رو بخوام جذب بکنم من اول باید برم یه کلونی تشکیل بدم از بچه من از حبیام. اینا رو دور خودم جذب بکنم با اینها یک روابط باحال خوب پر از نشات درست بکنم بعد اونا رو یه دونه یه دونه تور کنم بیارم تو جمع خودمون از اونایی که کمتر مانع دارنم شروع بکنم تا هی این مغناطیس قوی و قویتر بشه وقتی خیلی قویت شد اونی که خیلی فاصله دارن میشه آورد. ما برعکس کار میکنیم میریم میگیم اگه تو راست میگی هنر داری برو اونو بیا بابا سب کن من باید اول این بچه منظهبی رو در خودم جمع بکنم نتیجه ای میشه که همه انرژون میزنن برای اون طرفی ها. این بچه مذهبیان که با یه ذره وقت گذاشتن با دو تا موتورشون را بیفته استقامت کنن اونام به مرور وا میرن پس بعد خودشون میگفت میگفت من دانشگاه میرفتم به بچه مذهبی ها و هییتی ها و اونا هم ها میگفتم حق نداره توی خوابگاه نها... شام بخورید شما تونو برمیدید میایید یه سفره مین دادید کف سالن تو راهرو همه اینجا میشینید بعدو مثلا سی نفر 40 نفر میادن تو راهرو سر سفره بگو بخند بگو بخن شوخی همه تو اتاق. بعد از, از یزدی مثلا بچه سوسولا رد میشدن و خودشون میادن به ما میگفتن که ما خیلی دوست داریم تو جمع شما باشیم. بعد همین جمع باحال ما اینا رو یه دونه یه دونه میکشون. وقتی یه دونه یه دونه میکشون کم کم اون ساختار فکری عوض میشون شما میگید اون طرفیا نمیذارن من میگم این طرف وقتی یه عقبه داریم، یه جمع باحال داریم، این جمع باحاله میشه تکیهگاه. شما یه سنگریزه رو بذار طروت خونه جرعیان و آب میاد اونه هی میقلتونه هی میقلتونه اگه بخوای نگهش داری یه سندیزه دیگه میذاری کنارشکر دیگه میذاری این ویگه میذاری پشتش 7.8 تا که گذاشته اینو سفتش میکنی اونجا دیگه حالا آب میاد ار روش رد میشه این تکون نمیخوره جامعه مؤمنین بعد شکل بگیره صف بعد شکل بگیره تا آدم ها حفظ بشن خیلی نه. خیلی نه. آقا زمان هم بودش دیگر سوالی دیگر آقا با. بازر تو معلیفه اگر میخواییم برای حاکیمیت یه دیگه توصیه داشته باشیم. اینکه که باشه که این با لحظ فعالیت و معصر نه بلکه اولا اتحا کنه این زمان کنه کار کنه مدت حاکیمیت کجا باید ادام کنه دور اثنان مثلا چند تا مهم مثل رسانه و آموزش شده ها. من فکر میکنم تصورم اینه حس خوب رو باید شروع کنه ایجاد کردن تو رسانه تو فضایی که دست خودشه حس خوب ایجاد کردن نسبت به آدم های محجبه نسبت به آدم های مذهبی البته ما یک چالشی که داریم اینه که این آدم های اینجوری اصلا پای رسانه ما نیستن یعنی ما با یک نسلی مواجهیم که هیچ جا ما رو نمیبینه تلویزیون ما رو نداره ایتا و تلویزیون سروش این چیزهای ما رو نداره حیعت و مذهب و این چیزها و مسجد هم پیداش نمیشه من تنها چیزی که به ذهنم میرسه بر این آدم ها حضور فیزیکیه یعنی با بری تو دلشون تربیبون دبارون به طبعه بری تو مدرسهشون فشارم بخوری فعلاً هم از دین و خدا پیغمبر حرف نزنی حس خوب فقط ایجاد کن برو باشون تفریح، برو باشون سفر برو باشون اردو برو بشون یه حال خوب بده این حس خوبه بعد ایجاد بشه لذا حاکمیت به نظر من سرمایه گذاری اصلیش رو باید مثلا روی حس خوب ایجاد کردن یعنی اگه میخواد طلبه ها رو هم بسیج بکنه بفرسته توی مدارس شنان بازادیه مثلا یه نوع حس خوب باشه این افت عمومیه که خود آه مثلا چقدر حس خوب ایجاد کرد آره آره آره آره و بعد از اون طرف باز فکر میکنم با اونهایی که واقعا دیگه از نگاه عامه در نگاه قالب پذیرفته نیستن با اونها واقعا برخورد کنه و رو نشون بده مثل همین قضیه فتنهای اخیر که اونی که واقعا اومده تو میدون میخواد آسیب بزنه به انقلاب اعدامش هم کردن اعدام کردن بقیه غلاف کردن خودشون هم میگفتن میگفتن گنده ها رو که گرفتن دیگه کسی جورت نمی بیاد بیرون واقعا رو تو اون پاساجه یه فیلم در یارو یا مثلا با یه وضعی اومده که دیگه هی جوره هیچ جوره هیچکی براش جور در نمیاد تو مخیلش این دیگه رو باید اجازه پیدا بکنه این باباش برخورد بشه پس برای قالب حس خوب ایجاد کردن برای اون دونه درشتایی که از نگاه قالب خارج از حدود هستن برخورد کردن به نظر من این دوتا شاید گام های اولی باشه که باید برداشته بشه بعد از این دوتا گام اول واقعا بیایم برای هجاب وقت بگذاریم و فلسفهش رو توضیح بدیم اینم باز توضیح دادنش شاید تو رسانه های عمومی مثل تلویزیون اتفاق نیفته چون خیلی از نسل نوجوان و جوون نمیشینن پاشه مثلاً, مشترک نده. مثلا شاید راهکارش این باشه آدم هایی که یه قدر سلبریتی هم تو فضای مجازی مثل این استاگرام و مثل تلگرام و اینها و خیلی حالا برند اونجوری مذهب آخون نیست یه آدمیه روانشناسی یه دکتریه. آدم متدینیه ولی در حد من آخون نیستش که لیبل نظام بهش بخوره از زبان این ها شروع بکنیم گفتگوها رو سازی ها رو اتفاق افتادن یه کار دیگه هم که داره اتفاق میفته و اثر گذاره احساس اده و اده داشتن رو ایجاد کردن این خیلی موثره. الان مذهبی های ما واقعا فکر می فقط خودشون مذهبی هن. یعنی بعضی از های تهران با ما صحبت میکنن مثلا گفته اون میکنیم که حالا همه گذاشتن کنار هیچ کی دیگه قبول نداره پتشگو با ما مثلا فدا 22 بهمن می این یه سری هستن اعتکاف برو این یه سری هستن واقعا خیلی از نوجوان‌های ما نمیدونن تعدادشون زیاده من به نظرم یکی از کارهایی که حاکمیت میتونه بکنه اینه که آره این مانوره بعضی از نهادها دیدم انجام میدن مثلا همه دخترای محجبه رو جمع کرده با همدیگه رفتن پارک فلان 200 دختر محجبه یه دفعه با هم دیگه به چشمیان احساس و قدرت میکنن این خیلی موثره استحکام میده استقامت میده مثل همون سنگایی که پشت اون میذاری احساس میکنه عقبه داره تنها نیست اینم خیلی فکر میکنم محصرش. خیلی بشینم. هم صحبت ابتدایی شما خیلی مفید این سوال دومی و بخش دوم دو قاب مفید بود که تقریبا الان یه نیم ساعتی هم از وقت گذشته. شرمنده بخش. خیلی سپاسگزارم شما محفظید. که زحمت کشن تشریف آوردن تشکر می‌کنم از اون که دوش دادن کردن رو. فضای مجازی خیلی متشکرم. خسنارت. شما. خیلی خب یه برای برکتش به روح عزیزمون که اسمشم هم بود هدیه بفرما. اللهم <تصفيق> <تصفيق> و صفحه بیان داره. یعنی آدم درست بیان دیگه دست شما نینکنم. خیلی محافظ